حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه بهتر بلک هوادارت چون بلدی بخندی با چشم دل ببازی با اش دل ببندی ازباک دلب سبزه پیچیه توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا تجواه که درب سبز پیشیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم یلداتون مبارک باشه چه شبی بشه امشب دوره هم با رادیو پس فرداییاش و راڈیو فرداییاش و کل ایرانیاش برو بریم بحبه همه با هم خوبی؟ خوشی؟ سلامتین یلداتون مبارک باشه به به واه واه چه میوههایی چه سفرههایی چه چیز میزایی دارین سر سفره هاتون نمیتونیم ما چیا داریم رو صفره هامون به به مرسی که امشب ما رو مهمون شب یلده خودتون کردین امشب اومدیم که اگه این نفس بکشه بمونیم دیگه یه سه ساعت نه دیگه کلم بمونیم نه سه ساعت همیتون نیمه شب فقط بمونیم پیجامه هم آوردیم با خودمون دیگه جای دیگه هم نمیریم همینجا هستیم با شما این تا دوازده شب تا نیمه شب دوازده شب به وقت ایران البته دور همیم شب 40 سم شب بابا شب 40 است برو برو باون یی ی همانا این هندوانه ها و انارها و آجیل و بستنی و بخور بخور که به آنها در این شب یلدا حمله بر میشوید خب حمله بر بشوید و نوش جانتان اما بدانید و آگاه باشید که شب یلدا از قدیم و لعیام تا به حال شبی بوده که در آن فال حافظ و نقل و غصه خانی هم رواج داشته و اصلا کسی ناراحت نمی شود که ما فکر را وسط بخور بخورها، اندکی هم در جهت مسائل فرهنگی یلدایی بجنبانیم ام زاو خودشان یک سال است برای تهاجم به خوراكهای یلدایی برنامهریزی ریزی ای رادیو هسبر دا دادا دا دادادادادا دا دا دا دا دا دا دا. اما و اما و اما اینجا رو داشته باشین منو نگاه منو گوش کن ببین آقا یه دفعه وایس اون هندونه رو بکش بیرون از دهنت و من چی دارم میگم ها کار داریم بابا این همه زحمت کشیدیم برنامه شب یلدا ساختیم آهنگ خوندیم براتون دیگه کلی غیر دادیم اینجا کلی موزیک ساختیم کلی ویدیو ساختیم اونایی که توی فیسبوک ما هستن حتما ویدیوش هم دیدن حالا یه بار دیگه اونایی که نشنیدن دفعه اولی. یک موسیقی یلدایی تقدیم به شما بیا آهان بشکن بیا شبش سیاه شبش یلدا شبش سیاه یلدا چه ماه یلدا اینجا دلارو شدن چه رو به راه یلدا چه رو به راه یلدا هندونه ها پاره هن آجیلا, آجیلا بیچاره هن انار دون کرده رو مهمونه این کاره هن مهمونه این کاره هن یه شام مشت و سنگیناره مرغ و کباب و تحچین امشب رژیم نداریم به فرما اینجا بشین حافظ و بیار کنار دستت بذار یلد و بی کار حافظ هن. اصلا به فکرت نیاد قرصی بودش یک زمون جمع می شدیم دور اون یلدا بود و کنارش قصه بود ساز و مزمون ببه کمش سیاه یلگا آخ چه ماه یلگا اینجا دلا روشنن چه رو به راه یلگا چه رو به راه یلگا شو می باشو سنگیر اره مرغو کبووت نچی امشب رژیم نداری بفرمایید جا بشین حافظ و بردار بیار، کنار دستت بذار گل دبی فال حافظه آره اصلا به فکرت نیا گل دبی خوبه پادو لورو دیو اس فردا با, با, با فرشی منافی کجای دنیا هر جا ن ن ن ن ن ن سیاه دا می کنم آخرین نفس باد پاییز دم کوچیک و تو بزرگ زندگی تو با خودش ببره. و برس شادی زمستون کلبه آرزوهات رو سفید پوش کنه آن فرشید جام. جلداد مو چه کاری آخ چرا وسط تلفن مردم صداشو قدر یه بار دیگه پخش کن بند خدا حرف زده این همه اینقدر حرفای قشنگ زده میکنم آخرین نفس باد پاییز دمهای کوچیک تو بزرگ زندگی تو با خودش ببره بحبه. و برق شادی زمستون کلبه آرزو ها تو سفید پوش کنه. آقا فرشید جانیداد مبارک گای همه پسورده یا مبارک کاامل از قبل ها. قربونت برم حام جون گای تو هم مبارک چه حرف های قشنگی؟ چقدر با احساس این بچه به خدا اصلا یه حالی شدم همین اول بر موزیک رو. خانوما، آقایون، دختر خانوما، آقا پسرا دقت بفرمایین این هفته ما موضوع برنامه راژیو پسوردامون راجب شب بود و امشبم که خب شب یلداست از اول هفتم که راجب سوالمون صحبت کردیم بهتون گفتیم که یک سوال شب یلدایی داریم براتون اونایی که دوست دارن با در تماس باشن از طریق تمام راه های ارتباطی موجود میخوایم برامون از آین و رسم و رسوم شب یلدا در منطقه محل سکونت خودتون به ما بگیم. اولا وقتی تماس میگیرین بهمون بگین اهل کجایین شب چله رو چجوری برگزار میکنین دوست داریم صدای شما رو از مناطق مختلف ایران تو ویژه برنامه شب یلدهی امشبمون بشنویم داشته باشیمتون، که یک نشینی یلدایی به وسعت کل ایران داشته باشیم یادتون نره برامون از شب هاتون بگین و زمنن شعری زمزمهی آهنگی حکایتی آوازی هم اگه تو چندتون داشتین که مناسب این شب بود بیریزین بیرون که شب چله دور هم استفاده ببریم حالا چه تنهایی چه با خانواده فرق نمیکنه. هم همخانی با خانواده هم قبوله پس لطفاً با ما در تماس باشید از طریق اپلیکیشن رادیو فردا میتونید صداتون رو ضبط کنید برای ما همین الان بفرستید و همین امشب صداتون رو در همین برنامه بشنوید. میتونید با تلفن ما یعنی دو سف 420, 22, 11, 24, و و6 تماس بگیرید و همینطور دو420، دو 26، شب یلده شب یلده خیلی رو مونده تا فردا شب یلده شب یلده خیلی رو سلام احوال شما خوبین خوشین شب یلدا چی کارین ببخشید من دستم بنده دارم انار دور می کنم یه متنی دارم نوشته بودن بگم ولی الان دستم از پوست انار سیاه شده نمیتونم بگردم توی قیاهای اینجا کاغزه رو پیدا کنم ولی به هر حال یلدا بتون حسابی خوش بگذرین کنار دوستا و فامیل گپ و گفتتون به راه باشه سام یه دقیقه بیاین ورین کاسه ناردونار بگیرم بگردم این, بگیر. این کاغزه رو پیدا کنم سامی دستش بنده بابا دستش بنده سامی اون سامی الان بیاد, بیاد بیشه توی چرمه خودش چی کار کنه برنامه رو هوابل کنه پا پیدا شد سپاس خدای را اززوجل دارد پاییز را پایانی و زمستان را آغازی نهاده است هر نفسی که فرو می سرد سر و چون برمی آید دیوکسید کربون پس در هر نفسی دو زرر موجود است و بر هر ضرر قری واجب از دست و زبان که بر آید که از عهده مهمونی شب یلدا به در آید یلداتون هندوانه ای آناری و پرآجیل با شب اول زمستونو توی خونه پر مهمنو با تموم سردی اینشا پر گرمی دلامونو صحبت از گذاشته همونو از همه خاطره هامون و آسمون میزننم نمم روی شیش برف و بارون شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیامو تقسیم میکنم با تو آرامش این سالو دلچسپی این حالو نیتم تو هر حالو تقسیم میکنم با تو شب یلدامو کل آرزوها و زیبایی دنیامو تقسیم میکنم با تو دلچسپی این حالو آرامش این سالو نیتم تو هر حالو تقسیم میکنم با تو حسین می کنم موتون. دستم استم کون جامو به بربالا بزند دستم. بیقرارم کن تو علامستی شب شب یلداست. فرشته جون سلام, سلام شب یلداست ولی متاسفانه شیفت کاری میمونم محل کارم. همین هم دیگه منم هم از بندر تماس میگیرم مهران هستم خدافظ بحبه سلام برسون به همه همکارها دوروبریا خوش باشی میدونم سر کاری شب یلداد اونجوری که باید باشه شاید نباشه ولی اگه بخوایش خوال کنی اگه بخوای بخندی اگه بخوای خوشحال باشه بخوای نونه بخوری هر شب میتونی شب یلداد باشه به خدا خوب بله جلال اومده اینجا تو سلام علیکم سلام علیکم. آقا جلال خواننده و رقص بله دیگه خوبی من خودم فکر نمیکردم که خوب باشه <تصفيق> خیلی خوب بودی آقا ویدیو رو بریم ببینین روی فیسبوک رادیو را پسوردی ویدیو گذاشتیم با. بابت همین این موسیقیقی که اول برنامه پخش کردیم یه ویدیوی هم ساخته شده جلا هم هنردمایی کرده هم خونده هم یه غی داده و بر بهبر خوبی با. چه خبر اوت برم سلام میگم به همه و به تو خسته نباششه دع می چه خبر ها جلا عرض کنم که خبر که بالا کنم میشب ولی من داشتم دو همین شب یه و شب و این چیزهایی که هم تحقیق می و به نتهایی شگفتی هم رسیدم. شگفت چی برد. بود نتایج؟ ببین من رفتم گوگل زدم چرا شب؟ چرا, چرا شب. شب تو گوگل آمی. آمی آره. بعد وقتی این کارو میکنی خب گوگل یه سری این سرچ های نشون میده دیگه که کاربر فارسی زبان قبلا کرده بودن آره یعنی قبلا هر کی زده چرا آه. شب تو آه. اونجا میبینی که آره بعد... آره خب چ... چی بوده آه. آه. خب خیلی بعدی... بامزه بود نتایج مثلا اولیش این بود که چرا شب یلا طولانی نیست خب این که اشکال نداره سوال علمی آه. داشتن دیگه آه. بچه ها خب بعدیش چی بوده بعدش این بود که چرا شب نباید ناخن گرفت دو دومین دغدغه ناخون بوده چرا آخه عرض که ببین منم کنجکاوش شدم که تحقیق کردم دیدم که میگن که چون شبا تمام کلسیوم بدن میره نوک ناخون نباید شب ناخون بگیرید تمام کلسیوم بدن شبا میره نوک ناخون جمع میشه برای همین میگن شبا نباید ناخون گرید دقیقاً آره چرا بچه‌ها خیلی علمی بعد شب یلدا رفتن سرآق چرا شب نباید ناخون گرید خب من واقعا غافلگیر شدم واقعا از کرسی ما همچی نداشتم. من هم چه توقعی نداشتن منم همینطور واقعا یعنی چی هستن خب دیگه چی بود ببین سوال بعدی بود که چرا شب جمعه ها همین همین چرا شب جمعه چی آخه همین بود بس که مثلا اون طرفی که اینو سرچ کرده یه اتفاقی براش افتاده بود این وسط یعنی چرا شب جمعه که زده بود دیگه نتونسته بود ادامه بده دیگه ادامهش بی خیال اتفاق بدی براش نیفتاده باشه در صورت و جواب سوالش هم گرفته ایشالا. باشه ایشالا. بازم بود حالا یا نه تام اینجا تام سوال زیاد بود اما آخریش این بود که چرا شب ما سهر نمیشه آه از گوگل پرسیده بودی نه دوستمون آره دیگه منده خدا حتما کسی دیگه ای رو نداشت ازش بپرسه دیگه آخه الهی ایشون هم جواب سوالشونو پیدا کرده باشه شبشون سهر شده باشه ایشالا. دیگه ان شاء دیگه چی دیگه, دیگه. دیگه... چیزی نداری شب یلدا چرا دیگه ببین چرا اون سرود ملی منم بی بذاریم من برم رومیز. آها خیلی وقت رو میز نرفتیم جلال دلش تایش شد باشه آه آهنگو میذاریم ولی رو میز نر آو میشکن بیچاره میشیم نرم. جلال آقا نرام دیوید پس چیه؟ هیلیکوبتری میزنم با آج. آقا بذار اون <تصفح> یار خوش رو بذار بزم بذار مدت من میخوام هیلیکوبتری بذار یار خوش منظرشونو بذار بله. شنامندگان عزیز شماش شنامنده سرود ملی جلال یا همون یار خوش منظر هستین بل هیلیکوبتری میزننیشون میشه <تصفح> شاید حرکات تانگی هم داد <تصفح> موزه با صدات دنیا جان حیف به گنج یار خوش نظر بسو بگیر و خودت ببر حیف به گنج یار خوش نظر نکرد دیگه رفیق خبر مگه دل نداری سر به سرم میذاری مگه تو دل نداری سر به سرم میذاری سلام آقا فرشید شب یلده هم شما تمامی همکارانتون مبارک باشه والا شب ما... که میگن من شب اول قبر یادم میفته <تصفيق> آقا <آه> شب چه خیلی قیلی دوستتون داریم ممنون آقا آخ... آخ... آخ... شب نه این کاره نه این کاره میکنی زنی میزنی به ما که شب اول قبر یادت بیفته آقا شب یلده این چیزا بعیده عجیبه دوره نکنین کارو نکن قربونت آار ازادچم شب هم مبارک باشه خیلی ممنونم از تماستون. یه سلام به بچه ها بکنیمفل خیلی غمگین کردن دوستان همج یه دفعه نمیدانم چرا شهررم و سامی ها کردن غمگین باشهان چون شب اول غب بحث شب اول غب بود خیلی جدی گرفتم بچه ها. بابا یه چیز گفتون ولش کنی یک سلام مخصوص حار کنیم خدمت بر بچه های دانش آموز که این روزا کللا تو تعطیلات به سر میبرند یعنی ما که بچه بودیم آقا یکی از در که داشتیم از مسئولینیم بود که ایام یدایی رو تعطیل کنندن و کسی گوشش بهدهکار بود. بعد این بچه‌ها الان معلوم نیست به کدوم امامزاده‌ای رفتن متوسل شدن انقدر هوا آلوده بشه انقد هوا آلوده بشه که این هفته براشون کلن تعطیلی بوده تا حالا دیگه چه بحث حالا بازم بشه همچین تعطیل ادامه ده تعطیلی ادامه پیدا کنه دمتون گرم دیگه یک کم هم از این فوتوفناتون یاد ما بدین تو رو خدا چجوری جوری هر چی بهش میرسین بچه‌های این دور زمونه به این راحتی تعطیلیاتون نوش جونتون وسط یلدوازی و شیطنت و از در و دیوار بالا رفتناتون یه نگاهی حالا به کتاب جزوهان بکنید بد نیست بعد دیگه زیادم نخورین درد نشین ببخشید دیگه توصیه زده حال طور بود وسط من مذارت میخوام راحت باشین آقا از هر کاری میخواییم بکنیم چه کاریه بچه از بازه هر میخواد بکنه والا یه شب یلده هی گیر میدیمه بچه سلام فرشی جا خوب هستی؟ ای جان سلام من نیکنه هسته بسته ما مدرسه همون به جای دو روز خوب. دو هفته تحتیله ایش که ای ها فردا تحتیله فیتیله. ای جان دلم این یکی از همون بچهای بود که داشت خوشحالی میکرد از فتیله یعنی از تعطیلی خب دیگه برحال بچه ها شب یلده هم هست تحتیلی هم هست خوشحال هم دیگه ای جان دلم خوش بگذره مبارک یه ما از خطایی آدمیست که میخواهد به چشم خود شاهده پیروزی باشد کامران ملک سلام علیکم چطوری؟ سلام علیکم سلام به همه گیز نیستم برمانتون من بخواستم من دیگه سلام بکنم بله بله بفرمه خواهیت بکنم امیدوارم که امشب که طولانی ترین شب ساله همینطور طولانی ترین برنامه رادیو پاس فردا همه مثل همیشه همراهمون باشن برای اونایی که تنها هستن و اهل سینما هستن توصیه جدی دارم بشینن یه فیلم طولانی ببینن که این شب طولانی براشون کوتاه بشه البته بعد از تماشای برنامه پیشنهادیم داری برای فیلم طولانی که خیلی طولانی باشه همون یوسف پیام‌ها رو میتونم ببینن آره خب دیگه من به ذهنم آره هم می‌دونستم همین الان آنجلوس تا سوال دیگه طول میکشیم ما خب البته ما با کامران امشب هستیم یعنی توی چند بخش قراره با کامران و فریبورز گپ و گفتی داشته باشیم حالا این بخش اول فقط قرار شد بیاد یه سلام و علیکی بکنه خودی نشون بده بدونین که کامران هم هست با ما آره. چی داری برای, برای شروع اگه اجازه بدی میخوام یه چیزی پیشنهاد بکنم بخشی از اولین کار گروه بمرانی که برای شب یلداخوندن رو میخوام توصیه بکنم نسخه کاملش علاقمنده گروه میتونم با یه جسدجی ساده سرچ به قول مخارجی یا فضای <تصفيق> مجازی پیدا بکنم حدود 8 دقیقه خورده ایه. این کار اولین اثر گروه بمرانیه که به صورت پادکست به مناسبت شب یلده منتشر شده بله این فکر کنم اسمش بمرانی باشه البته یا بمرانیه بمرانی. بمرانی, بمرانی من شنیدم آره اسمشون بمرانیه این گروه بمرانی آره. بریم پس بخشی از من با لحجه گفتم لحجه یه لسانجلسیه بمرانی همون بمرانی, بمرانی, بمرانی, بمرانی میگن بمران. دیگه اونجا یا. ممنونم از کام رو هم برمیگردیم بازم باید گپ گف و گفت میزنیم مرسی از این کادوی شب یلداییت بریم کار برابط شای بمرانی رو بشنویم ببینیم چیه ای وای از شم وقتی یادت نمیاد ای وای از شم وقتی خوابت نمیاد ای وای از شم شایی نخورده شد سرد ای از شم تو رو به این شب چل بر ای از شب که دروز است و تو یه بار تا آخرش گوش کن نفهمیدی دوبار بار گوش کن آفرین سه بار گوش کن روحم شاد یادم فراموش ای وای از شهر <متصفح> که قول صبح یادت رفت ای وای از هر هرچی داشتیم دادیم رفت ای وای از شهر آیا فلسفه شب را به هیچ عنوان نمیفهمید. آیا از اینکه در شبیه که فقط یک دقیقه از دیشب طولانیتر تر است و مردم انقدر شلوغش می کنند کلافه شده اید؟ آیا دوست دارید مهمانهای یلدایی خود را با لگد از خانه بیرون کنید؟ فقط با ما تماس بگیرید یلدار ستیزان با سالها پجربه در زمینه نفهمیدن فلسفه شب یلدار در خدمت شماست؟ اگر میخواهید در شب یلدا در خانه خود راحت باشید و سر و صدا و حیاهوی دیگران شما را تا مرز افسردگی نبرد اگر هیچ علاقی ندارید که مثل قوم مغول به های شب یلدا حمله کنید و تا صبح از فرت سنگینی معده خوابتان نبرد با یلدا گریزان تماس بگیرید مشاورین یلداگریزان آماده‌اند تا به صورت تلفنی به درد دلهای ضد یلدایی شما گوش داده، حتی با شما بغض کرده، گریه کنند. یلداگریزان سنگ صبور همه بی‌عصابان ضد یلدایی. یلدا گریزان باشه جان من واقعا نتونستم این پیامو برات نفرستم. روی حرفم با اون هستش که تماس گرفتن و گفتن خب سه ساعت برنامه داری واسه چی میگی؟ واقعا چرا ما وقتی یه چیز خوبی داریم نمیتونیم قدش رو بدونیم؟ واقعا چرا نمیتونیم سپاسگزار باشیم؟ همه حرفم همین. ای بابا دعوا نکنین حالا، خوب باشین با هم. اشکال نداره آقا هم یه شوخی کرد حالا. شما هم لطف کردین حالا جواب دادین. دیگه حالا اینطوریه ما دیگه دو دفعه گفتیم حالا سه ساعت برنامه داریم دیگه. ما ولی واقعا سه ساعت برنامه داریم الان نیم ساعتش گذشته دوستانی که صدای ما رو میشنوید برنامه ما زنده و مستقیم هست از پراگ پایتخت جمهوری چک از رادیو فردا برای بچهای رادیو پاس فردا من فرشت منافی شهرام سامی جلال شراگیم کامران فریبورز، شرمین دیگه پیام رزی واو. چند نفخری شما با شما خصوصا خیلی بیشتر میشیم آقا سلام میکنم به <تص konuş> همتون به این تیم بلندبالای رادیو پسورده به تو فرشید به برابچه ها اون طرف این میز جذابی که چیدین در استودیو امروز و به همه رادیو پاس وردایا به خصوص اون پردهنگیاشون ها های را... چی شد رسی پیام اولا یلدت مبارک باشه یلدتتون مبارک التای شنوندگان مبارک خوش بگذره خیلی بهت از این میوهام حتما بخور از تو پنیرایی این اشتباهو قبل از این اینکه این بخشو شروع کنیم کردم یادم آره دیگه ترش بودن آره میگن آره. آره. آره. آره. بعد از برنامه رادیویی معمولا با انار خورده شده خبر پردهنگ چه خبره چی شد بله فردا و... آره فردا و آهنگ سرجشن هستن. یعنی دارن 24 ساعته از رادیو فردا پخش میشن. تلاشمون هم اینه که ترانه‌های خوب پخش بکنیم در 24 ساعت. فرداهنگ هم مثل همه برنامه ها مثل رادیو پس فردا که هر چند وقت که باز شما احتیاج دارید یه تنفسی بکنید و تنوعی و آره ایده های تازه بیاد، فاصله بیفته. فرداهنگ هم تو همین فاصله است و امیدواریم قول نمیدم نمیتونم بگم چه روزی کی ولی به زودی خبر فصل تازه فرداهنگ رو شنونده ها همین با همین اسم فرده هنگ میاد یا اسمش ممکنه تغییر کنه یعنی یه برنامه موسیقی برحال دیگه حال ما لوگومونو که نمیتونیم بذاریم که لوگو شده فرده هنگ یعنی اصلا آه. ما مثلا برای های رادیو پس فردایی ما بر برای بچهای هنگی داشتیم هنگ. و داریم و میدونم خیلی ازشون شنونده برنامه تو هم هستن همین الان و فکر میکنم که که هنگ اسم مناسبیه با همین اسم برمیگریم ولی با یه فرده هنگ متنوع و تازه میای خیلی هم خوب هممون فرداییم دیگه عملا میشه گفت هممون فردا فردا در همه اسمایون برنامه هست دقیقاً آره. برای اونایی که نمیدونن ببخشید برای اونایی که نمیدونن بگم پیام رزی مسئول موسیقی رادیو فرداست و موسیقی هایی که در طول روز از رادیو فردا میشنوید گلچین و انتخاب میشه توسط نتاله و... ها من آتوسا. آتوسا بله آتوسا, آتوسا هم... همکار خوبم سال هاست ما الان داریم در کنار هم کار میکنیم سال ها هم میشه که داریم بخش موسیقی رادیو فردار رو میگردونیم و میدونم که خیلی دوست دارن بخش موسیقی راژیو فردار خاطر تنوعش و خیلی ها مثل نگاهی که به همه رسانه ها و هنر موسیقی هست انتقاداتی دارن که این انتقادات میتونم پاورجا میمونه اما تلاش ما بر اینه که روز به کم کمتر بکنیم این انتقادات ولی واقعا من خیلی از طرف دوستای سمیمی خودم خیلی پیام های خوب میگیرم راجع به موسیقی ها موسیقی های خوبه رادیو فردا و اینکه واقعا خیلی گوش میکنن موسیقی ها رو و لذت میبرن دمت گرم دست درد نکنه مرسی ممنونم که منو دعوت کردی نمشوه اینجا من سه ماهی بود فکر میکنم نمیماده بودم تو این استودیویی که برای منم مثل شماها خیلی پر خاطره آره دیگه پردهنگم از همین استودیو درست همین میز پشت همین میز در کنار آتوسا و بر بچه بچه‌های پرده‌هنگ و, و خیلی شنوندهایی که همیشه با ما همراه بودن بودیم امشبم مثل اینکه شنیدم سه ساعت برنامه داریم. حالا نگوولش کو. من نه اولا شما چرا نگوفتین؟ چرا از جذب میشن؟ درست <تصح> <تصح> <تصح> میگه با هم با هم خوب باشین، با هم مهربون باشین. مطمئنم این 3 ساعت که دو ساعت و نیمش باقی مونده به همتون حسابی خوش میگذره فقط منو وسواس میکنه می‌کنه که ببینم فردا وقت داریم چند تا ترانه آوردم یه ساعت، یه ساعت و نیم. ترانه بشنوی مگر من برم تو باقیشو میری دوستان داره <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من داشتم میشمردم ببینم چند ترانه ها با خودم نه از, ب... از طرف بخش موسیقی رادیو فردا یه چند تا هدیه کوچولو ها بردم. اگه وقت باشه <تصفيق> با هم میشنویم اما شب آخر آذرماه و فصل پاییز بد نیست که یه نگاهی بندازیم به ترانه های برتر وقت این برنامه و شنونده ها رو با مرور همه, همه ترانه ها نمیخوام بگیرم فقط میخوام بگم که رقابت خیلی سختی بود فرشدین ما بزرگای موسیقی بودن امه. و, و... میتون آره فراممرد اصلانی بود موین بود حامی بود شهرامم شبپره بود سینا حجای بود و توی این میون یه خاننده جوون که حتما تو هم می شهرزاد که طرف روز به روز بیشتر میشن تونست با آخرین ترانهش به اسم همرنگ برنده این ماه بشه فاصله آرایش هم با بقیه خیلی خیلی زیاد, زیاد بود و این اتفاق جالب آذرماه بود. قطعی رو میشنویم از از و ترانه بسمه. همرنگ رو با هم میشنویم برنده آذرماه رقابت ترانه های برتر رادیو فردا. تو جونم تو میدونی جبر نگاه میکنه بارونم تو میدونی که درد صدای تو درد منه نشین دوست داشتی فرشی بود. آره نقش این بود این تو هم ممکن بود رای بدی به هیت شهرزاد آره ممکن بود نمیدونم بخوب بقیه رو نمیدونم دقیق نمیدارم دو دیگه نمیدونم دقیقاً چیم ولی کار قشنگی بود چهرزادم از بچه‌ای بود که توی اکادمی موسیقی آکادمی بود آره ما در فرداهای و... مفصل به این موضوع آره. اشاره کردیم ولی خب از این که اون اتفاق سالهای پیش افتاده و آره. الان به عنوان یه خواننده مستقل کار میکنه خوشحالم که شنونده‌های رادیو فردا هم پسندیدن کارشو و بهش دادن دیگه چی دارین ترانه‌های این فصل رو با این ترانه ما میبندیم من فقط بعدم نمیاد که یاداوری بکنم برای همه که در آبان ماه مرورودی بدان با صدای کیمیا قربانی از گروه تحریفا برنده شد و مهر ماه هم حسرت سیاوش قومشی با این سترانه ما میریم به پیشواز زمستون بعد از گزروندن این دقایق خوش در برنامه تو و شب. یلدا. حالا هدایایی که کرن. آوردم براتون دو تا. وقت داریم دیگه دوختی سه تا دیگه. هدایای معنوی همش یا هدایای مال... مادی هم هست. مادی معنوی. هم هم هم. رو الان پخش می‌کنیم، مادی‌ها بعد رو برنامه... بعداً دور میز با هم دیگه می‌شینی میخوریم بسیار خوب. خیلی <تصفح> خوب. <تصفح> <تصفح> اه... تا بچه ها نخوابیدن، تا هنوز بچه ها دور سفره هفت سین هستن در ایران که ساعت هفت <تصفح> سین نداریم، هفت سین یه ما شب یل آره سفره همیشه آخرش آدمو می‌رسونه به میرسیم دیگه ولی حالا حالا هوای شبه یلدا خیلی وقتا حالا هوای شبه اید هست بخواست این که همه دوره هم هنو یه صفری پهنه بود تقصیر این میزه هست میدونی این میزه اینقدر با سلیقه چیده شده و چیزای مختلف روش هست آره. مثلا 7-8 تا چیز مختلف هست منو تعریف هفت باید عکس بگیریم این عکس رو حتما روی اینستاگرام رو فیسبوک بذاریم که دوستان هم ببینن. آره قبل از این که ما خب دست بکار بشیم گفتی بچه هایی که تا دیدارن... بچه ها هنوز نخوابیدن وقتش بریم یه ترانه کوتاهی رو بشنویم از ساخته های حانی نیرو که مؤسسه ای به اسم پردیس برای بچه ها که در آمریکا واقع شده در شهر نیویورک هست این رو تهیه کرده این مجموعه کمک میکنه برای بچه که بیرون از کشور دنیا میان تا با فرهنگ و زبان ایرانی همچنان آشد. معنوس بمونن و بزرگ بشن مثلا سامی براش خوبه که اینو بشنوه مثلا میفهمه یلدا چیه سامی ولی سنش خیلی بالا آره دیگه ولی معنوس نشده هنوز شده. آره. پرانسویه دیگه اینو معنوسه براش این قشنگی کار قشنگی ارزشمندم هست برای کودکان ایرانی سر و سر دنیا این مجموعه رو اگه بتونن تهیه بکنن در ایران هم در دسترس دوستاران هست میتونن در ایران هم خریداری بکنن ترانه های پردیس کاری از هانی نیرو که قبلا مفصل معرفیش کردیم مصاحبهام باش کردیم در فرداهنگ هنرمند دوست داشتنی چون برنامه 3 ساعت آخم. وقتم دارید منم از بخش موسیقی اومدم <تصفيق> یه بار دیگه آرزو میکنم این لحظات و دقایق هم برای شما اینجا تو استودیو خیلی خوش بگذره هم برای شنونده‌هایی که گوشه کنار دنیا پای رادیو نشستهنم شب شب یلدا یادی به یاد موندنی برای همتون بشه یه ترانه دیگه هم آوردم فکر می‌کنم که بعد نباشه که با هم دیگه انتخاب خودته انتخاب خودمه ولی یکی از حساشینه که خیلی داغه یعنی امروز منتشر شده به یلدا هم خیلی ربط نداره به هر حال هم توی برنامه امشب شب مفصل پخش میکنید کار بمرانیه رو شنیدم که پخش کردید کار شنیدنی کار ولی این حالا هوای خیلی زمستونی داره فرشید و ملودیش هم ملودی قدیمی یک آهنگ محلی قدیمی ایرانیست به اسم قد بلند هنرمندان متعددی اجراش کردند. بلند آره مثل خانم پری زنگنه همین کار کرده ا و وقسام تا به حال اجرا شده این کاری از گروه هونیا که گروه خیلی با که یه ویدیو خیلی دیدنی رو هم برای همین قطعه امروز منتشر کردن که تا دقایق دیگه همتون میتونید سر بزنید به صفحه فیسبوک بخش موسیقی یا به صفحه فیسبوک شما در رادیو فسرد این ویدیو دیدنی رو هم میتونید اونجا ببینید خیلی خوشا رنگی خیلی زمستونیه و خیلی به شب یلدا میممنونم ازت پیام رضی عزیز خیلی خوش اومدی و خیلی ممنونم ازت امیدوارم که شب یلدا ادامه‌ی شب یلدا برات خوب باشه و پر از خنده و خوشحالی و پر از های خوشمزه و الان دیگه داری میری یه دونه انار رو به نظرم بردار از این پای این... برنامه مفصل آره. مشغول میشم منم خوشحال شدم که اینجا بودم به همه فرهادانگیا وعده میدم که زود برگردیم قدر بلند رو بشنوید از گروه هونیاک شب یلدا همتون مبارک شب یلدا بدون فال حافظ نمیشه اینه که امشب میخوایم فال حافظم بگیریم در زیر بله حاجا قاین در مومنین و فرزند برومندشون نصف المومنین بله بله خودمشون میگیم یا همون نصفی خودمون هم اینجا هستن و خب گفتم برای حاجا قاین در مومنین بزرگ جمع ما محسوب میشن بله از ایشون خواهش میکنیم بعد از این که من فال رو گرفتم و شعر رو خوندم ایشون زحمت بکشن برای ما تعبیر و تفسیر شعر رو بفر بله تافضل سالاممون علیهله سلام عیکوم خیلی من باپار بنده به صورته هم زمان. ترجمه مو کنم دقیقه مرای شانبان همان مینونم از شما مفرق. ددی ترجمه بلده. نه بابا تفسیر یعنی علا. بگی منظور شاید چی بوده از این صحبت هایی که داره میکنه آره دا. حق با نصفیه دیگه. حاج آقا اجازه بدین بنده فال رو بگیرم شعر رو تا آخر بخونم بعدم با هم دیگه بریم جلو بیت به بیت آره مرور حی. کنیم و ببینیم که آره. چی بوده خب این اه... کتاب حافظ الان. جلوی منه میخوام نیت کنیم و فالی از حضرت حافظ بگیریم اگه اجازه بدین بنده فال رو بگیرم بگیر دیگه تفاد دل، تفاد دل. فال بگیرم. رو بگیر که ما امشب خیلی کار داره ما یک دوتا منبره دیگه هم باید بره. خب فقط سکوت کنین بذاریم من نیت کنم آسکوتو. شمام نیت بکنین که به اتفاق نیت. این سکوت فال سکوت بگیریم دیگه من که فرشی جون چشمم و بستم دارم نیت میکنم خیلی هم خوب بستی جان دل تو نیت میکنیم می مربطن الله جانت بالا بیاید دیگه بگیر دیگه ما هم نیت کردیم دارد دارد دارد دارد. دارد. حافظه, دارد. حافظه دارد. شیرازی بر ما نظر اندازی من طالب یک رازم تو کاشف هر رازی به حق شاخ نباتت به حق جام شرابت منظور خودتو از مراد ما بیان کن فکر اومده فال امشب ما به بله. به یعنی اوه اوه شانس آجاقا چه فالی هم اومده ای خوبه تو میخونم براتون سامی جان اون افکت خوشکلر رو بده و اون موسیقی قشنگر هم بیار زیر صدا که تاثیرگذاری این سامی حال حافظ رو ببریم بالا دیگه تو این شبیه هده قیب رندان مکنهی زاهد پاکیز سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نیکم و گربد تو بر خود را باش هر کسی آن درود آقبت کار که کشت همه کس طالب یارند چه حشیار و چه مست؟ همه جا خانه عشق است. چه مسجد چه شد سر تسلیم من و خشت در میکده ها مدعی گر نکند فهم سخنگو سر و خشت ناامیدم مکن از سابقه لطف ازن ناامیدم مکن از سابقی لطف ازل تو پس پرده چه دامی که چه خوب است و که زشت نمن از پرده تقوا به در افتادم و بس پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت حافظا روز عجل گر به کفاری جامی یکسر سر از کوی خرابات برندت به بهشت حافظا روز عجل گر به کفاری جامی یک سر از کوه خرابات برندت به بهشت با عجب و اومد فرشید بکنم داشت میگفت این جوانه مم... گیر نده نمیدونم. دردی محبه. البته ببخشید؟ من کوچیک‌تر از اونم که بخوام فالو تفسیر کنم ولی همینطوری خب نسیمی جان اجازه بده حاجاقا در این مورد صحبت میکنن شکت... حاجاقا ما سراپا گوشیم خطت... ده... که شما تفسیر بفرمایید دیگه در بیت اول گفته که مفرمای. ای برندان مکنه ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نبرد بگو دادی پاکیزه سرشت من میگو برامون معنی کن تفسیر بخون بگر بچه‌بگو ده... ببینم من من چکار میکنم دادی ده... ایشون دارن ده... میگن زاهب پاکیزه سرشت انقدر با رندان نشست و برخواست نکنین رندان سابقه خوبه ندارن اموالتا را بالا داد میکشم هر واقعا همچی چیزی دو... میگه من فکر نکنم دادی اصلاب نداره دا فرشیده بیخیال با... ول کن به پای پر پاش نه برو بیت بعدی من میگه باشه چشک اجازه بدیم بریم سراغ بیت بعدی در بیت دوم میفرماید من اگر نیکم و گربت تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که بله میفرماید که ما یعنی شخص ما که هر که هستیم هر که هستیم به تو هیچ ربط نداره <تصفيق> بعد در مصرع دوم هم درباره کشاورزی اه. و بهبوده کاش تو داشتو باهشتو نوکسره توصیه‌های داره کرد ببینید یعنی چی گفته بله. یعنی ولی فکر کنم بله. منظورش این بود که نباید به ها سخت گرفت بله. بله. ساکت شده قفارزنده نوغ سول اصلا برو مراکاندار ببین من که توی دست با پای ما نباش با با تمرکزمون رو به هم می‌زنه ببین حاجی اینایی که شما میگین خیلی البته رابطه به شعر نداره ولی خب دیگه حالا براش شما برداشت خودتونو از شعر می‌گین واقعا نمیدونم خب بریم سراغ بیت بعدی فضل گفته که ki... همه کس طالب یارند چه حشیار و چه مست همه کس طالب بحبه. اشتند چه مسجد این... چه کنه چقدر قشنگ آره قشنگ. با. با. میگه با. همه دنبال یارن خیلی قشنگه واقعا منم هم همیشه دنبال نیمه گم شده خودم میگردم و اینو دوباره برام میخونی فاشید جون بی زحمت نه بخش... چرا میخونم جان همه کس طالب یارند چه حشیار و چه مست همه کس طالب اشتند بحبه. چه مسجد <much> <مس> اینجا که میگه همه کس طالب یارند منظورش از یار روحانیت <تصفيق> میگه همه تو کار روحانیت <تصفيق> هم هیچ فرقی هم دیگه حالا میخواد روحانیت اما سفید باشه یا سیاه باشه جوان باشه پیر باشه همه همین دنبال روحانیت همه دادی به نظر من که این منظورش بازم با. این بود که باید به جوانه آزادی بیشتر بدن مسئولین ها این اشتباه تفسیر نکرد واقعا پدر و پسر م. یعنی آلین یعنی م. تو این زمینه یعنی حاجی هرچی خودش میخواد تفسیر میکنه نسبی هم هر چی خودش میخواد اونجا هم فشی. که برادر منافی اونجا, اونجا هم که میگه اما کس طالب اشخند چه مسجد چه چی بود اون بعدش کنشت حاجا کنشت بابا کنشت نسی جان یع میفرمودین این بخشش رو همه کس طالب اشقن چه مسجد چه کنشت این بخشش رو حالگه بله اما یعنی داره مگه که همه کس طالب اشغ روحانیت هم خصوصا مؤمنات ها. و روحانیت را از اون اینجا دقا. برای هدایت مؤمنات در تمام مکانها آزاد آزاد مگذارهگه حتی جایی مثل اون. ناشتا چی اونجا هم آزاده هدایت بله دستون در بله نکنی بله بله. اصلا کلا بله. کانسپت شعر رو کلا همه چی رو عوض کردی از اون بیت بگذریم میگم بله. اه... بله میگن که فرصتمون هم برای این بخش تموم شده آج آقا و نصفی عزیز آره دیگه حالا چون برده برده. بعد یه استرات کتایی بکنیم یه چیزی میت کنیم با دوباره برمیگردیم برای ادامه یه تفسیرشه ایت چیزه فقط آه. فرشی جنین میواها تموم شده ها بگو این ظرف پر کنن دیگه بابا زایست جبه حالا, حالا غیر از جیبای حاجی که پره تو ظرف هم ببین اون خورمالو چیه؟ پس اون خورمالو حق مایه اون عشق ماه. ای بابا، باشه حاجی مالو شما، همش بله مال شما. بله بله. زیاد، میگم بازم بیارن. چرا پلیس فجی، فجی فجی یه خچ از اون هندونه ها که تو جیبت می هم دهنم خوش شده، گذاشته تو جیبت. برا کنار ببینم بچا، برو حرفا بچا. دایی، لطف کنید بی بیرون چون ما کار داریم ادامه برنامه شب یلدا رو برامون ادامه بدیم. بفرمایید خیلی ممنونم حاج آقا نسفی میبینیمتون دوباره برمیگردین دیگه قربون شما بچا ازشون پذیرایی کنین دیگه بیرون عاجل و اینام هست آره آره چون شب یلدا رو به تو تمام علیکم. همکارات و تمام رادیو پاسوردهای و هموطنان عزیزاند رو هر کجای دنیا که هستن تبریک میگم امیدوارم که دلشون شاد لبشون خندون باشه حمتونو میبوسم هاله اش امساییست ممنونم هاله جان شب یلدا شما مبارک سلام فرشی عسى نباشین دمتون گرم با این سه ساعتی گسه شب یلدا گذاشت شب یلدای ما با شب یلدای ایران فرق میکنه نمیدونم چرا البته جایست... ما اینجا شب یلدا میگیریم هندونه رو میترکونیم اما با... شب یلدا ما دو ماه دیگه شروع میشه چشمت روز بعد نبینه فرشیدم از نورش قربونت برم فرشی جان ممنونم از تماس اما تو این شبیه که ما دوره هم هستیم و دنیا برامون شیرین و روشنه هستن کسایی که حتی تو این شب هم خوش نیستن توی بیمارستان ها، توی پربرشگاه ها، توی زندان ها، توی پادگان ها. حتی همه اونایی که شب رو سر کارن هن، هم با هم بامون تماس گرفتن و خب به خاطر انجام وظیفهشون شون با خانواده رو از دست دادن وقتی که هر چیزی تو رو از بودن با دیگرانی که دوستشون داری باز میداره تلخه و گاهی این تلخی عذیتمون میکنه رو برای همه این عزیزان روشن میخوایم و امیدواریم اگه صدای ما رو میشنوند بتونیم حسای یلدایی رو تو وجودشون زنده کنیم حداقل چون ما هم مثل اونا آشق یلدای این خونه هستیم من عاشقه دنیای شیرینت چند روز مونده به زمستونم وقتی از احساست به برف میگی شرکتو چشمات میخونه من عاشق دیالگه این خونم من عاشق در فز مستونم وینش خوابه دنیا مدیونم من با تو تنهاشتم ممنونم من عاشق دیالگه این خونم فز مستونم این عشق به دنیا مدیونم و به ساعت نه و پنجا و نه دقیقه و پنجا و الان شد ساعت ده شب ساعت ده شب سلام رزا جمالی سلام بر تو فرشید منافی شب یلدات مبارک شب یلدات تو شنوندگان گرامیان هم مبارک همه منتظرن این ساعت از شب از رادیو فردا خبرها رو بشنوند خبرها رو ازتون دعوت میکنم از زبان رز جمالی بشنوید ممنون است وفرجی قربونت در صورت خبرهای جدی خبر <تصفح> که خیلی زیاد است صورت توی برنامه شادی تو مجبور هستیم که یک سری خبرهای جدی هم بخونیم حتما یه سری منتظرن تو خبرهای جدید رو بشنونن شب به شما خویشتن گرامی دبیر شورای امنیت ملی ایران میگوید که مصوبه کنگره ایالات متحده درباره محدودیت مسافرت به آمریکا می تواند تاثیرات جبران ناپذیری بر روند اجرای تعهدات متقابل در اجرای برجان به دنبال داشته باشد با این حال مقام های وزارت خارجه ایران روز دوشنبه ابراز امیدواری کردند که با اجرای توافق اتمی در دیما تحریم ها علیه ایران برداشته شود یک سایت عربی روز دوشنبه از اسارت دو نظامی ایرانی در اطراف شهر حلب در سوریه به دست گروه شبه نظامی گوردان شام خبر و عکس های آنها را منتشر کرد سایت عربی 21 به نقل از گوردان گروه شام خبر داد که این دو نظامی ایرانی در منطقه خانطومان در جنوب حلب به اسارت در آمدند. خانطومان روز یکشنبه محل درگیری شدید گروه‌های مخالف بشار اسد با نیروهای دولتی سوریه بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی نوشت که این منطقه روز یکشنبه به تصرف نیروهای دولتی سوریه درآمد. منابع مستقل هنوز خبر اسارت دو نظامی ایرانی را تایید نکردند. سایت واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران و خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات این دو خبر را بنقل سایت عربی 21 منتشر کردند ولی آن را تایید و یا تکذیب نکردند. معاون امنیتی وزیر کشور ایران روز دوشنبه اعلام کرد که گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت درباره دستگیری 3 نفر که قصد بونگذاری در قوم مشهد و تهران را داشتند صحت ندارد. به گزارش خبرگوی فارس حسین ذوالفقاری در این حال گفت که در روزهای اربعین تهدیداتی از آن سوی مرزها داشتیم ولی از ابتدای امسال به گفته یه وی فقط دو مورد تهدید وجود داشته است او به جزئیات این تهدیدات اشاره نکرد اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه در همایش وحدت حوزه و دانشگاه از خونسا شدن سه سهمگذاری در شهرهای مشهد، قم و تهران خبر داده بود هزاران نفر در بیروت روز دوشنبه در مراسم تشییع و خاکسپاری سمیر قنتار شبه نظامی نزدیک به گروه حزب الله لبنان شرکت کردند. حزب الله گوید سمیر غنتار در حمله هوایی های اسرائیلی در نزدیکی دمشق کشته شده است. دولت اسرائیل بدون تایید این حمله از کشته شدن او استقبال کرده است. در مراسم تشییع و خاکسپاری سمیر غنتار سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله نیز حضور داشت. کمیته اسطراری آلودگی هوای تهران در نشست روز دوشنبه خود تصمیم گرفت مدارس شهرستان های تهران ری و اسلامشهر را رو روز سهشنبه فردا تعطیل کند به گفته سخنگوی آموزش و پرورش مدرسه ها، پیش ها و کلیه مدارس مناطق 19 گانه شهر تهران فردا شنبه از اول دیما ما تعطیل خواهند بود. این تصمیم به دنبال آلودگی بیش از حد هوای تهران گرفته شده است. سازمان هوا شناسی از تداوم آلودگی هوای تهران تا پایان هفته ایجاری خبر داد. و خبر آخر این که قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به پایین ترین سطح خود در 11 سال گذشته رسید. صبح دوشنبه نفت خام برنت به 36 دلار در هر رسید. در سال جاری میلادی قیمت نفت 36 درصد کاهش یافته و از تابستان سال گذشته حدود 60 درصد از ارزش نفت خام کاسته شده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، عدم توافق اعضای اوپک برای کاهش سقف تولید و انباشت نفت مازاد در بازار سبب شده قیمت نفت روندی نزولی را طی کند. فرشت ممنون و جمالی رو شنیدیم از رادیو فردا با رضا جمالی بریم به ادامه ویژو برنامه یلدایی شب یلدا و دوباره میبینیم ات ها حتما ساعت هشتنیم. ساعت هشتنیم. هشتنیم. ساعت, هشتنیم به و ساعت یازده شب, یازده شب به وقت تهران ممنون. ممنون. بابا تو این دیگه مخاطب ها یادم نمیره ره کار هنری کرده تو عروسی سامی با زمبر بده تو روس بده چله شده فاشی شیدجنلو خیلی ممنونم به هن نمایی کردن تلفن زده بودن آقای اون خانم ها دختر خاان هاقا این روزا بازار یلدا شناسی از همیشه داختره و مثلا توی اینترنت هر سایت و گروه و صفحه که میری میبینی مثلا کلی مطلب گذاشتن در مورد شب گرددا و تاریخچه یلدا و نماد شناسی شب گرددو خیلی هم خوبه یه جا داشتم میخوندم که شبیه گلد هندونه برای این خورده میشه که سرخی هندونه نمادی از خورشیده. و خورشید مگه سرخه. والا الان به بچه‌ 4 ساله‌ام بگن خورشیدو نقاشی کنه با رنگ زرد میکشه خورشیدو. چه جوریه داستان؟ یعنی قاعدتا اگه قرار باشه شبیه گلد و میوه‌ای به رنگ خورشید خورده بشه خب بعد موز بیارم بذارم وسط دیگه والا یا مثلا میگن هندونه با انار برای این سر سفره گذاشته میشه چون هسته و دونه زیاد داره و نماد برکته. خب اگه قرار به حس داشتنه پس خرمالو این وسط چیکاره است؟ ها نمیدونم من دیگه خلازه این حرفا سخنا زیاده. آقا آدم نمیدونه به کدوم اعتماد کنه این روزا. البته یه چیزی بگم ما تو همین مطالب گلدایی که اینور می می‌بینیم یه وقتا با هیچ چیزایی هم مواجهه میشی اول فکر می‌کنی مثلا شوخیه یا سرکاریه ولی بعد که میری ته تو جو درمیاری می‌بینی نه بابا انگار درسته. مثلا تو یکی از همین سایت‌های شناسی چند روز پیش خوندم که ترکیب هندونه و آب انار یا الان هندونه و انار روی قدرت شب بخیر گفتن مردان تأثیر عجیبی میذاره الان گوش همه تیز شده عین ناغلاها یعنی آقایونی که مثلا در بهترین حالت اینجوری شب بخیر میگن شب بخیر اینجوری مثلا شب بخیر میگن بعد از خوردن این ترکیب یه جوری شب بخیر میگن این شیشه های پنجره به میاد د میاد اونجا گفته شده بود که برای همین این دوتا میوه پای ثابت سفره‌های شب چله تا این حرفا آقا ما رو میگی اولش فکر کردیم خالی بندیه بعد رفتیم کلی تو گوگل سرچ کردیم و اینا دیدیم نمیشه که ظاهرا قضیه جدیه و این ترکیب یعنی ترکیب هندونه و انار همه جای دنیا به عنوان بهترین جایگزین طبیعی برای قرصهای تقویتی و خلاصه شب بخیرگویی اینا دیه؟ معرفی شده بله حالا کاش نمی گفتم اینو الان دیگه نه خودم رو میشه شبیه یلدا لب به و انار بزنم اینجا این هم هم گذاشتیم روی میز و اینا رو میشه تعارف کنم به کسی آقا اصلاً شما نشیده بگیرین حرفای من چه کاریه ول کو راحت باشین تو طور خدا سامی شهرام جلال بر بچه ها از خودتون پذیرایی کنی خودم هم می‌خوام که شما هم راحت باشی بخوری برای سامی شهرام بز قوت بگیره اینو گفتن خوبه برای چیز اره برای سامی بود ما بگم ما این همه تیم تنز داریم تو ایران که سیدی سی دی میکنن میدن این مارکت ها و مردمم میخرن به علاوه اینکه شاید یه دو دقیقه خنده بیاد رو لبشون یه هم هیچ وقت نمیفته خوب ولی بله چی؟ شما را یعنی جنبش جا؟ تو سامی کلادم چراگین بلبل و کامران تنها تیمی هستن که میتونه بارسای لوییزنکرام در بنورده اونم تو زمین خودش البته بگم ها. برای ورزشو بعد بذارین سرمربی دمت عماتون گام قربونه قدتون یالاتون هم قشنگ کمیتم از تهران سامی برو برین قربونت حمید جان از تهران دمت گم فریبر شنیدی سلام سلام سلام هر هم سرمربی ورزشی تیم پاسوردا برای ورزش غریب خوبی قربون شما اجازه بده فرض اجازه منم سلام بکنم به همه شنمنده های عزیز و طرفا قرس مثلا اخیر و یه شر یلدار گم به همه اون رفادارایی که الان پای برنامه‌مان نشست. ولی بورس اول از وضعیت عاجل و میوه شب یلدو بگو سوروسات به راهه. فرشیام بدون اینا که هرگز انار و سیب و انگور و خرمالو هست هندونه البته نه به اندازه کافی سرخی داریم دلتون نخواد آجیل یلدام به راهه. آجیل به سبک آلمانی درست کردم با این مغفروشکاهی که لوازمش که اینجا پیدا کردم یه سری چیزهای دیگه هست که الان نمیشه استفاده کرد خلاصه جای همه خالیه اون چیزهای دیگه که نمیشه استفاده کرد درمجی مالی دیره هفتی ما خیلی صداش در نمیاریم اوکی. اه... آخه اه... خب از ورزش در شب یلده چی می... میشه گفت بری برسی؟ یونم وسط بگه که یه مصاحبه شب یلدهی کرده آدل فردوسیتو با آقای زریب و امور خارجه قرار بود امشب پخش بشه یه خبرای زیرخاکی از چند پیش همینجوری داره میاد که یه سری فشار رو بردن به صدا و سیما از کندکتور برنامه نوت امشب خارج شده بسید باید منتظر بمونیم ببینیم چی میشه. جالبه آخه آقای ظریف و وزارت خارجی چه ربطی میتونه با ورزش داشته باشه؟ اونم توضیح شبیه الدا بزاره... همون باید سب کنیم آره. ببینیم چیه جریان فرشید سال خوبیه اما این میدونم دقیقا که طلب دلاری فدراسیون فوتبال خودمون از سیفا به خاطر پریم ها رو ویخته بودن به حساب وزارت امور خارجه که قرار تثیه بشه یا تصوییه شده شاید و موقای میخواد از سود، آجیل شب یلدا که احتمالاً واسه آقای کریس و قاچی برده با تاشم تعریف کرده حرف بزنه تو برنامه انشاء الله شاید آجیل. هم شاید ممنونم از لطفی بود موقتاً بود خدافظی می‌کنیم دوباره برمیگردیم میایم ببینیم کجای کاری آجیل‌ها رو خوردی به اون باقی چیزایی که گفته الان نمیشه گفت رسیدی یا نه فعلاً باشه خداحافظ اول بود اخمی هرو پی جور بنه بوز احمد په کشی میچل چرانه میچل چرانه ام شوشی میخونه ور شیرینی خورانه دگ تمنان شو فونز ما نیا اپ فربوسن گینه چگی تمنان چنگ می پوسو و کان می پرتقال می نکم بابا کنم بلند می پرام آها بو بلند می می دیلا خوره امروز نشست و بابا کنی فردا دوباره می چینی کو می چینی کو سای قربان بشم نا کوئی تچر براس می چینی قوری می چینی قوری یارم چشم منم شو میگن که هندونه این شب یلدایی خیلی گرون شده یعنی میگن 4500 بلکه بیشتر حالا ما هم فقط شنیدیم نمیدونیم دقیقا آیا واقعا این اتفاق افتاده یا نه حالا بریم ببینیم که آیا این توریه. حالا اکبر اکبرو سرهنگ میخوان برن دنبال این قضیه چقدر باشد شب عاشقان بی تو بیا که باز باشد دل شب از اول صبح به به سردندگان محترم در آستانه شب مبارک میمون و همینطور بسیار طویل جلدا در خدمت جناب سرپرست جناب ما ارثیش را در کاوه ایشون مدت ها یکی از ماموریت های غیر ممکن بشیم که دیگه خود تام هم بگه با ای بل اعلی حضرت دیگه چی است اما ما در ابتدا از جناب سرپرست می زمن عرض چاف سلامتی همین روی متحول با شما عزیزان کمی تا قسمتی درامته با این عملیات صحبت کنی بله بله بله با سلام و عرض یردا مبارکی باست بگم که تایی چند روزه گذشته ما چندین مورد چکایت داشتیم از بله. توی مردم عزیزمون مبنی بر گران فروشی که خب ما تصمیم گرفتیم با ایکیپ های برزیده و آمادهی خودمون به شکلی خود ها ضربتی واردی عمل بشیم و برای شناسایی یا دستگیری شخصی مغصر و خاطی اقدام کنی. از هره این چی رو گلو که برخی از فروشنده ها هندونه شب دارو به نرخی از قراری کیلوی چاره زارو پون تو به مردمی شریفه میشه در صحنه با شیاسی پذیر فروختن. به همین خاطر از که ما واردی عملی یاد شد خدا خود. یعنی یهدونی معمولی حدود بی هزار من پای مردم ما پرخرن بله. متسفانه بله در پارهیت موارد مشاهده شده است که بیشترن فروخت در آقا چ جو... اینصفافه یعنی. بله. خب به سنگ حالا این تیم برزیده کجان که به چشم معد نمیان یعنی من نمی اشون کجا بین آقا شما اگه چشمی بثیرت تا باز کنی تو آینه این سمت راست نگاه کنی میبینی داره میاد از پاشتی اوه او, او, او اینکه غندی فکستری خذمونه کهه عقب داریم بله. این بودیم ضه والله با این شوری محسوس هستن باقی نیروها به صورتی در حالتی آماده باشه هستن که در صورتی نیاز طب. بلا فاصله باشه, باشه. ایوا با سان جوازی دقیقاً دیگه کاریش هم نمی‌شه کرد چی چی می‌گیم از ما... کجا شروع میکنیم در ابتدای ترین ب... در ابتدا می‌ریم همین بازاری می و فروشی سر چهار را که بیشتر این شکایات ازش شده می‌خوایم ببینیم علت از کجا من گرفته ها ولی بل... ولی شما نگم عزیز همون متوجه شدی قراری که در یک عملیات پلیسی هیجان انگیز موتوری منشه مشکل گرانی و شناسایی و دستگیر کنید با مندی اکبر میکروفون طلا و جواب سر همراه باشید بیگ از بلد تای بیگ از بیگ فقط سر خدای دس انداز وب خب آقای میوه‌فروش این ماجرا اینه اون فروشیه شما چی, چی بوده؟ به طرف خودت ما قرب ببی... ببین آقا از شما شکایت کردم هندونه رو 4500 تومن بهشون فروختین علت چی, چی بوده؟ ما بی‌تقصیریم جناب سرهنگ. ببین آقای فروش این سرهنگ و اینجوری نگاه نکنه، قاتی کنی، آویزونتی نکنه. گفته آقای عزیزی چی چی؟ میگم ما تون نیروی انتظامی با هیچ کس برخورد خشن نداری. فقط برای ما اجرای قانون مطرس آقا برنگ زایی نکن دیگه تقصیر من منه میخوام کلاسی کارتو رو برم شما در روندی باز جویده خالت نکن گزارشه تا خب میگفت یا آقا جون که جور کنش چون کار ما نیستیم دختی کامی اوندار که رو بارو میکنه ما مجبوریم بکشیم در نرخ کالا هم عجب قاسوخی سا. خانه کنندهی دادا من که مجاب شدم سرحن بیا برگردیم دیگه برش درست سهلا عزیزی من گفتم شما دخالت نکن آقای ما طرف این جوابی شما که نشد پاسو کامیون دار چرا نرخ شاغرون کرده؟ اوکی دیگه وکیل وصیو نیستین، برید خودیش بپرسین. ما همین کارام میکنیم، شما نمی نمیخواد بر ما تاین تکلیف کنی. پاتاقه این کامیون داره کجاست آقا؟ والله سمت سراخاورانه. ها بله. از قابی سهراب مرغی پاکوتا از قابی سهراب مرغی پاکوتا. زایی قواب شهر الان توی یه غندیه نه ای. آقا جو شو لغ نکون. مرغی پاکوتا میای می و فروشات دست بند میزنیم میشنید ترک اتاره تا میای دوواله ما. ایوا، ایوا خوب است بری غندی گذاشتی آ، مونگه فاکوتا. آقا منو چطور دستم بزنی؟ من که گفتم بی‌تقصیرم. حف نبات چد آقا. جناب سنتور خودت اومدم یا ول مون کن. زبونم بدم بی بی آقا شما با هم وانه شاهد با حضور داشته باشی. بله شما شاهد. آقا کامیون داره رو دوباره بگو ببینم. سر خاوران گاراختم. ولی بچم من کاری نیستم به خدا. شاهده که دستم نمیزونم جان سنت. بله میدونم. بریم آقا. بریم سرک. بریم. بفهم. محترم. در ادامه گزارش مقصر اصلی گرونی هندونه اما اکنون به همراه جاب سرهنگ در گاراژ دختر هستیم دختر ایسی بسید آقا اخ اخ ببخشی ببینم یا نیست که گاراج یختر بله میبینم که جاب سرهنگ داره با گارنده یکی از کامیون ها بی پارک شده به شدت گفته بوم میزه بدین هم نزدیکتر بشم ببینم که چی میگنیم نه گردن ما نندازیم فهمم؟ یعنی چی, چی این حرف شما هست گردنه کی بندازیم یعنی نه کار ما نیستیم خوب. وقتی برای یه فیلتر هوا و فیلتر نوخم باید صد صد و پنجا مجبوری مرخ کرایه رو بکشیم حیلی. بلا اگه بخوایم بادمون رو فقط تنظیم کنیم میکنه از قرار چرخی 500 تومن شما همین بادو بگی برو بالا شما بهتره بری اخه مکانیکو بگیری که ما رو مجبور کرده نرخ کرایه رو زیاد خیلی، کنیم خیلی میکنی کدوم هست کجا میکانیکی ابرام آقا طرفای شوش ببین آقای راننده ببین شما از دست قانون نمیتونی فرار کنی که سرهنگ همی چیوزیه نظر داره دیگه چی چی میگی عزیزی من؟ شما ده خول حد نکو صد بار گفتم خدا این دفعه بزنی که زوغ من شاکی میشه بعد مثلا چی کار میکنی شما هیچی وا هیچی هیف کن انجام وظیفه در صفای من باشه از آقای سر اب مرگی پاکوتا قندی این آقای وانم دراد دست من بزن من چونش تارکم اتورت من صورتی نامحسوس بیا به آدرسی که میگم آقا رسید مکانیکه کجا بود گفتی جوش به سمت تیدولو مکانیکه برم آقا, آقا. آقا ایشون گفت من ایم ایم رو دستم بزنن نه پس بنده رو گفتید زایدن این ماجره با ادامه داره شماندگاه عزیز در ادامه گذارشی مقصر ازید با ما همراه باشد شب یلده اومدی پیشم نخستی من باشم تمام <تصفح> بوی مو من وقل اولین لحظه دلم تو تو نمیشه به نام بچه پاتوردا مخصوص از سامی یلداتون مبارک امیدوارم فامیلتا. همه پاتوردا یا شب یلدای خیلی خوبی رو بگذارونن سامی کامیلت شب نمیتونم تو میمونی شب یلدا باشم حسزن از اجنتیما دورم دلم براش خیلی تنگه خوش باشید قربون همگی قربونت برم من فدای چرا فقط گفتی سامی من سوال شد برام چرا نه واقعا سوال دیگه مست مستم می کن طولم مستی امشب شب میزنم هی پشت هم پیمونه پیمونه امشب و جا خوش کنم تو کنجه میخونه لبریز کن جام یا هم پایه ساقی منم باده اگه یاری کنه تا صبح هم میزنم به به دمتون که همه رفتن اینو خوندن مثل که بر بچه ها دوره هم جمعن و همه این مستم مستم کن و میخونن دستون درد نکنه خیلی ممنون شب چلی همگیتون مبارک باشه ما هم میخوایم این شب رو که مصادف با تولد همسرم هم هست سه ساعت رو با شما عزیزان جشن مگیریم جشن مگیریم؟ ما هم خوشحال میکنید ما رو دستتون درد نکنه به همسرم سلام برسونید اما آقا یه, ب... یه چیز میخواستم بگم یه باور غلطی در مورد شب یلده وجود داره خانواده ها توی بلندترین شب سال دوره هم جمع میشن که بعضی یا البته میگم که نحسی این شب طولانی دامنشون رو نگیره. حالا بعضی های همچین باوری دارن دیگه سا که اصلا چنین چیزی نیست و از قدیم الایام شب آخر پاییز عزیز کرده و ناز پرورده بوده چون که نوید بخش بلند شدن طول روزها و آشتی دوباره خورشید با زمین بوده اینه که همچی که دوره همدیگه نشستین و گل میگین و گل میشفتین و هندونه و انار دون شدتون میل میکنین هر کسی از نحیه شب گردد این چیزا صحبت کرد. همینی که من الان گفتم و ختمتشون منتقل کنین که به اینجور باورهای نادرست دامن زده نشه ها اینجوری است. سامی خلاصه سامی و شهرام امشب با کلکسیونی از آهنگهای گلدائی میخوان به بزمه یک حالا هوای دیگه ای بدن دیگه ببینید چه میکنن ببینین چه میکنن این برو بچه ها به به سامی انار بخور انار با چیز با هندونه میگن خوبه قوت میده بذار بذار براش برای سامی بذار نریزی رو دستگاه ها فقط بابا ما راس می شب یلدا همه جمع میشیم خونه ننجور هرکی شب چلهشو برمی داریم بر اونجا که ننجور مجبور نشه تو زحمت بیفته ولی خب این ننجور ما فقط کار خودشو قبول داره امروز از صبح مرخصی گرفتم رفتم دم, دم دستش باشم اگه کمک خاست وقت تا زنگ خونه‌شو زدم و منو دید چاکی شده که بر چی کاری تو ویل کردی اومدی اینجا یعنی من اینقدر پیرم که از عهده کارهای خودم بر نمیام گفتم من بیجا بکنم ننجون گفت تو رو استابور برو کنار که میخوام برم یه هندونه سرخ و شیرین بخرم برای امشب گفتم خاله بزرگی گفته هندونه امشب با اون گفت خوش خیال من این خاله بزرگی تو هیچ وقت بلد نبود و یاد نگرفت که هندونه شیرین و سرخ و چطوری باید جست گفتم خب به من یاد بدین من کویک لرنر ام گفت چی چی چی چی گفتم یعنی زودی یاد میگیرم گفت یاد دادنی نیست هندونه بعد باهات حرف بزنه بهش که ضربه میزنی همچی شفاف جوابت بده تق تق هیچ چیز دیگه من از صبح اومدم مثلا کمک ننجون همین جزیره kursi نشستم خودش داره همه چی آماده میکنه دوتون مبارک گردایی شما مبارک شد دکتر چند وقت نییمدم پیشت؟ خوبی چه خبر؟ آره بایدتا من باید از شما بپرسم یک سوال حالتون چطوره من خیلی خوبم از موقع که پیش شما نیمدم بهتر و بهتر شدم. واقعاً خوب بیشتر توضیح زی بده دکتر بعد از اینکه پیشتو نییمدم رفتم پیش دکتر پیستون فروش نمی شناسمشون روان شناسم؟ نه ولی سرشنناسم خب تشکیصشون چی بود؟ ایشون گفت دکترت کارش خوب نبوده برام عسب کشی کرد عسب عصب... کشی اون که کار دندون تون پزشک بود دیگه دکتر پیستون فروش دندان پزشک معروف نشدی دکتر نه پس برای مشکلات دهان و دندانت پیش ایشون رفتید آره دکتر خب این که ربطی به مسائل روانشناسی و مشاوره نداشته چرا داشت دکتر دکتر من مشکلم اصلا توی دهنم بود یعنی چی نمیفهمم میفهمم آخه دکتر روزگار دهنمو ببین بهتره که آه. وارد جزیات نشیم متوجه شدم چی میدونی. یعنی چی دکتر تو از کجا میدونی که روزگار دهنمو آخه مریضم بودی عزیزم باشه دکتر قانع شدم دکتر جانم چییی واقعا خواستم صدات کنم. خب خوبه اینکه داری سعی می‌کنی انرژی منفی خودتو با صدا کردن دیگران مثبت کنی خیلی خوبه. دکتر جانم چرا شرطو پرت میگی انقد بابا شب یلداست من تنهام چیکار کنم؟ خب که نیستی اینجایی تو مطلع منی دکتر فکر میکنی چند نفر از ساکنین کره زمین دلشون میخواد شب یلدا رو پیش تو باشن ظاهراً یکیشون شما هستی واقعاً فکر کردی من دلم میخواد. اینطور به نظر میاد از خانم دکتر چه خبر دکتر خوبن سلام میرسن آخرین بار اصلا خوب نبود نمیدونم چرا چی خوب نبود خودش میدونه چی خودش میدونه دکتر دکتر عاشق اینم وقتی خودتو به کوچه علی شب می‌زنی متاسفانه به نظر میاد هنوز مشکلات حل نشده دکتر یاد پدر بزرگم افتادم. چطور؟ چی شد بابا؟ همیشه شب یلداها باهاش ماجرا داشتم. برام تعریف کن. چطور ماجرایی؟ شبای یلدا همیشه می‌رفتیم خونه‌ی پدر بزرگ. خب این که خیلی خوبه. آره پدر بزرگم همیشه هندونه ها رو خودش خاچ می‌کرد. خب معمولاً بزرگدرا این کار رو زیاد می‌کنه. من ندیدم هیچ‌وقت اینا رو. مگه اونجا نبودی؟ نه یعنی بودم ولی تو حیاط بودم. هم. پشت شیشه ها دماغمو می‌چسبوندم به شیشه پنجره و با حسرت این تصاویر رو نگاه کردم. نمیفهمم. یعنی پدر بزرگم از من خوشش نمی اومد منو می‌کرد توی حیاط قرارم میبست یعنی تو هیچ شب یلدا ای نمیتونی پیش خانواده باشی نه دکتر نه من تو سرما تو حیات بودم تا صبح بابا بزرگم اینجا توی خونه زیر کرسی بودن انار هندونه میخوردن خوردن منم همینطور می لرزیدم ولی با حسرت توی خونه رو نگاه می‌کردم دکتر من از هندونه بدم میاد چرا از هندونه میاد چون من یاده بابا بزرگم می نازه یاد شب یلدا دکتر میدونی که حالا چند تا هندونه فروشی آتیش زدم بازم شروع کردی به خیال بافی و دروغ بردازی گفتی که بهتر شده ایم. دکتر خواهش می امشب هندونه نخور به خاطر من به خاطر کمک به بیمارت. ببینم هیچوقت ازش پرسید پرسیدی از به در بزرگه. چرا این کار رو میکنه؟ آره پرسیدم خب چی گفت؟ گفت؟ کنن. خب معلومه چون تو یه واقعی نیستی تو باز آب روزی هستی تو نه سی نباید تو بلندترین شب سال توی خونه باشی مگه فامیلی دستنبویه؟ سهت بار بهت گفتم دکتر چقدر حافتت ضعیفه آز میخوام فراموش کرده بودم اصخایی چیزی رو حل نمیکنه دکتر دکتر شب یلده چی داری؟ تو مطلب که چیزی ندارم ولی خونه همه چی هست. به خدا اگه بیام دکتر اصلا اسراف نکن. در مورد چی حرف میزنی؟ دعوت هم کردی خونه‌تون؟ منم دارم مثلا تعارف می‌کنم. نه من دعوتت نکردم. سوء تفاهم شده. بریم دیگه دکتر دلم برای خانم دکترم تنگ شده. البته نیستن ولی شما هم با من جای نمی‌میره. دوباره کاشت رفت دکتر. کجا سوکتو؟ ایشون به یه کنفرانس علمی دعوت شده بودن تو جزایر قناری. کنفرانس علمی توی جزیره قناری. دکتر بعد چشمتو باز کنی خانم دکتر داره میره همین از این کنفرانس‌های علمی شروع میشه. بعد کار میرسه به اینجا که ما با هم دیگه تفاهم نداریم ما اینجا داریم درباره‌کی تو حرف می‌زنیم، نه زندگی من. وقتت هم در زم تمومه. دکتر، دوتامون تامون تنها ایم شب یلدا. بیا بریم با هم به یه رستوران گرون قیمت مهمونه تو بخوریم. بعدش هم بریم چند تا هندون فروشی آتیش بزنیم. عرض کردم وقتتون تمومه. این نسخه یه دونه قرص جدید نداشتم برات. دکتر میشه بغلم کنی میشه نازم کنی بعد خیر نمیشه بفرمایید دکتر میشه دستمو مهام بکشی و آرومم کنی دکتر راستی حالا که خانم دکتر نیست کی منتظر میمونه حتی شب الدا؟ آقای منشی مریض بعدی آقای دکتور؟ منشی دکتر دوباره گفتی مریض بعدی آخه نیست کسی هیچ وقت مریض بعدی وجود نداشته و نخواهد داشت دکتر فقط منم و خودت بفرمایید آقا بفرمایید وقت بنده رو نگیریش بفرمایید دکتور؟ آقای منشی آخ آخ, آخ, آخ آرتا الان عاشقان سینه چاک آرتا کشتن خودشون رو حراگیری کردن آرتا تو استودیوه مهمون ماست این بخش آیتم آرتا روانشناسم هم یه جورای هدیه ی رادیو ردیو پسوردا و آرتا بود برای شب یلدا سلام علیکم سلام علیکم Quapelo, از این چیزاتون بده ما بخوریم بجاش از این چیزامون من دست این انارها و این هندونه هاست دیگه قشنگ مشخص روزی به چی صحبت می آره ولی دست میره طرفش دست میگیره چند تا دست اینجوری میاد میزنه ماشاءالله خب هر کم اومده به خب ولی خب هم میترسن خراب شه برای همین دست نمیزدن چند جای دیگه بعد ببرین کنم امشب آره جای دیگه چه خبر بعد چند وقت امروز آرتاروانشنات زبت که آره یه سال امروز و... داشتیم زبت میکردیم داشتیم حساب میکردیم یه سال و یه ماه دو ماه پاییز پارسال بود دیگه پار جدا شدی از دو دیو پس گرفتیم مهریمو ندیدیم خب چه خبر <تصفيق> چی کار میکنیم شبه مبارک مرسی شبه یالداد شما مبارک چنمنده ها مبارک باید بشه با خلی... که این پشت هم بیچاره کردن ما رو به خدا انقرحی میگن آرطا آرطا دیگه گفتیم شبه گلدوی بیایم یه آرطا ربانشناس بخاطی آرطا ربانشناس خیلی خوب شده بود خیلی هم دوست داشتن آره اینم با مذده بود بین آرطا هایی که آرطا ربانشناس به نظرم خیلی خوب بود یک ماه آرتاشو. ماه آرطا ماه... شو شکر ماه شکر آره با مزده بودونم آه. خب امشب چی کار میکنی شبیه از امشب سر کاریم سر ما همیشه سر کاریم چی کارا میکنی سر کار؟ سر کار بلو حضورت که هستیم دیگه من یه توضیح بدم حالا نمیدونم بعضی از شنوانده ها شاید ندونن مهدی تاهباز که الان در رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا مشغول به کاره از ابتدای رادیو پسورده با اسم آرتا با ما بوده آرتا پورملک همه اون پسوردهیش آرتا رو میشناسند تا پارسال که دیگه پارسال طلاق گرفتیم الان دوباره رجوع طلاق کردیم <تصفيق> گفتیم که آارت هم بیاد و دوره هم باشیم تو این شبیه الدوایی و یه ذره شاکه. خوشحالی کنیم و چیا بردی برامون کادو هم داری کادو براتون یه دونه ترانه هستش که رپشه به شب له حالا میتونه داشته باشه یکم کمم یه ذره درترره رو بیارم میدونه که شبایله شببه اننا رو هندونه هست اون درشت براش نخوندن که حالا بیا به بالی نمایی اینکه می خوونه هندون رو نمیتونونه بیارم اننا رو تالت بردن به بالین هندون رو نبردن حالا پیام یلدایی حرف خاصی خوب کسی. باش ها چیزه به مامان بینی من سلام می رسونم اینجا گفته بودن که بعد سلام رسیدم <تصفيق> شب یلدا رو تبریک بگم به مامان بینی بعدش دیگه شب یلداشون مبارک باشه شب یلدای همه پدر مادرها مبارک باشه همه پدر مادرای همکارای ما تو رادیو فردا خصوصا مامان بینی, مامان بینی که بله. <تصفيق> آرتا به اشاره مامان کرد بله. و امیدواریم که خوب باشی همیشه مرسی. و بریم این هدیه آرت رو بشنویم این ببینیم به بالین میخواد بیاره میاد به بالینش یا نمیاد به بالینش شبیه یلدوت خوش مرسی همچنین شبه همه مبارک خوب و خوش و تکریک. سلامت و باش. اینه باش مرسی, مرسی خدا باشید بیا مم. بیا با سلام بیست و, و سی که نه دیگه الان بیست و دو سی شب را ضمن عرض خوشحالی به خاطر شب گلده با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می حمله ددمنشیانه گروه مختلف مردمی به موازه عجیلی میبهی غذایی دشمن فرضی به مناسبت خجست میلاد مسعود شب گلده و نظر کارشناسان که داشته امشبر و بیخیال ماشین اصلا نظر نداریم نمیدیم در یافته سومین کارت زرد مجلس شورای اسلامی از سوی وزیر آموزش پرورش و نظر ناظران که تو فوتبال دو تا کارت زرد میگیره اخراج بیشه تو مجلس ظاهرن کارت زرداشون تو مایه های کارت ملی همه دارنش ولی به درد نمیخوره و اعلام رقم 150 میلیارد تومان به عنوان حزینه ها و انتخابات ماه آتی و سوال فعالان عرصه هزینه که ای بابا خب بذارید جای مردم از همون اول اعضای شورای نگهبان رای بدن بره اینجوری میشه با 150 زارتمن جمعش کرد بره پیکارش مهمترین اناوین خبری ساحات گذشته را شامل میشدند اینک مشروح خبرها با چچهی همکاورم بوی بوی با سلام، رئیس سازمان جمع و فروش اموال تملیکی رقم قاچاق کالا در ایران را نزدیک به 24 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته است از این میزان تنها حدود 5 یا 6 درصد کش می شود در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت شب های چله بچه ها چه خور و حالی داریم اه آقای میکروفونت هلا هیچی نیگه شب چله طرف داره به قاچاق کالا با چی کار کنم دیگه به هر کارشناسی من زنگ زدم گفت شب چله کار نمیکنه بل بل دیگه, دیگه. خب الان من باید چی کار کنم خبر رو بلش. چی بخونم دلش امشب باید امشه هم بیخیال خیال خبره جدی شو بل بول بیا چیز کنیم امشب برخصیم بیخیال خبر بول بول بلش چی آقای میکروفون تره نمیشه که زشت سرکاری. یعنی چی نمیشه شب یلداس بذاره من ردیفش میکنم آه. اینه آه. شبهای چلی بچه ها چشور و حالی داشتی ای با ببین سماورا بیا بول, بول بیا با من بول, بول بیا بیا بیا من بیا ای بابا آقای میکروفون تلاقه درست نیست که بیا چی درست نیست مختم شمایه دیگه از تو خبر میخواد الانم شبه چلست ازت غیر میخواد بول بول جون دیگه بیا شل نکن بیا بیا بیا با من بیا بیا بیا <تصفح> باشه دیگه بیا. دیگه خودتون خواستی چه بل بل بل بل باید برخصه رویز ما هم باید برخصه هاشالله بله دیگه آقایی می کن من بهتون گفته بودم تو همه زمین ها همه چیز تمومم جای دکتر خالی بیا بیا والله بله زمین بزن دکتر بیاد در بده ای با. بیا بای بای بای. می‌خونه حکایت شب شب‌های چلتنمونه حکایت شب‌های چلتنمونه حکایت <تصفيق> شب‌های <تص چلتنمونه <تص> هنوز ما هم الان رفته اومداره برخش. نه بابا بسته دیگه تموشه دیگه. میخوام با مشکل گشایی مشاوره بکنم. نه نه نه من دیگه نمیام. ولی وا با بیخیال بابا ولی. نه نه منچ نمیرخسید نه حالا که دیگه ول نمیکن ولی با کار داریم ما. ولی شرابندگان عزیز از طریق خطوط تلفن در خدمت کاسهس مشکل گشایی برنامه جنام آقای مشکل گشا هستیم تا مشکلات ما را در این شب گلدا گشایی کنند. ای سلام مشکل جون خوبی اقا یلدت ببرک بشه بله بندم سلام عرض میکنم و که با ما سفارش ام. شده که به جز برای مراسم انقلابی شده نکنیم اما خب دگه الان بخاطر مخاطبان ما هم شبه طویل یلده رو خدمت همه عزیزان تبریک کرد میکنم شبه طویل خوب بله. یا مشکل خب بگو ببینم که شما در وزارت چیکار میکنید مشکل چوری حل درست میکنید والله هر صورت ما اینجا در وزارت هم بالاتر سربازان گمنام مقام معظم رهبری رو داریم که از این همبله خرا بسپ که خودشان شبه یالدورو سپاری میکنند دکتر. همین دیگه میگیم یعنی چیکار میکنیم شبه یکی؟ مال ارز کنم که مال بته یک بونده تغییر و توزیه هندوانه تغلبی رو امن کندرو زدفش مطالعه کرده. این لونه تغلبی نیگه با... چه شیعه یم و شیعه مگه داریم همچی چیزی هست؟ حالا بله افراد از غرب کشور با این هندوانهها نفوذ کرده بودن و داخل کشور و غات داشتن با توزیه این هندوانههای ای سفیده تغلبی بین مردم سیاه نمایی کنند که خب ا به بهترین شکل بخورد شد از شما ایام یلدائیه رو هم به سب که خودتون میگذارون این دیگه بالاخره بله دیگه خب بلاخره این ها وظیفه مایه آره هیه. خب دیگه <تصفيق> چی کشف کردی توی این مدت مشکل جان ارز کنم که با کار اطلاعاتی سربازان گمنام نظام خوشبختانه توانستیم چند کامیون انار منفجره هم کنیم که از غرب به کشور به با کشور بره شده بود. انار منفجره دیگه بس. چیه مشکل چی میزن اتا... تروریست های منطقه‌ای و کسانی که بس. چشم دیدن نظام و مقدس جمهوری اسلام رو ندارن دست دارن همه جوره به نظام ضربه بزنن و با, با تمام او با در برابر اونها ایستادگی دی میکنیم دیگه علی بله شما اصلا سربگیر بله بله. نظام هستید میزن این مشکل من نمی...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 ای چیز بابا با با برادر اکبر اونجا خبر خاصیه بنده صدای موزیک غیر شرعی میشنه نه بابا شو بابا کم کن بل بول, بول. نه بابا مشکل جایی همسایه‌مونه صدای ضبطش بلند نین بابا تو به نظر من زیستر میآد اگه فکر میکنید ممانعت پیش میاد برای شما ما یک واحد نیروی ویجر سوال کنم برخط کن با نه نه رفیق مشکل چیزی نه بابا کمش کن بود بلبل کم نه چیزی نیست تمومه دیگه باش باب تشکرت توجه شما تا برنامه دیگر و مشکلی دیگر و گلدهای دیگر خدا نگهدار. دار بابا بل بسته دیگه برو خونه دکتر الان نگران میشه چه غلطی کردیم روی اینو با کردیم دیگه ول نمیکنه. بلبل بل بل بسته تموم شد چمه گلدها ولش کنه دیگ و قصه تموم و با هزار تا وتابش میگفت تا وقتی که بگیر خوابش پاشین که اول قروبه حکایت شبهای چلمونه حکایت شبهای چلمونه حکایت های چلمونه قیلی وقت پیش در چونین شبی برای اولین بار ایرانیان ایرانیان اولیه متوجه شدند که آخرین شب پاییز اولیه یک کمی از شبهای دیگر اولیه بلندتر است و به دلیل که آن موقع هنوز شبکه جم اولیه اختران نشده بود تا مردم شبهای اولیهشان را با سریالهایش پر کنند مردم تصمیم گرفتند مرای اینکه در سرمای شبهای زمستان توی غارهایشان دیغ نکنند گوشت شکار گوشت شکار همان روز را یک کم چرب و چیدی تر کرده هندوانه‌های اولیهشان را هم زیر بغل بزنند و به همراه دیگه ماموت پلویشان به غارهای همسایه رفته تا صبح با هم باکومبا باکومبا کرده خوش بگذرانند گفته است از مطالعه فسیل‌های یافت شده ایرانیان اولیه مشخص شده است که هندوانه اولیه در آن دوران آنها میوه موجود بود و به همین دلیل آنها در این شب هندوانه میخوردند چون میوه دیگری نداشتند که بخورند و لو هندونو انار رو آجیل و کرسی و قصه های مام بزرگ ولی حالا بله. که خود فکر میکنم میبینم هیچی واسه مون نمونده کرسی که به تاریخ بیوسته آجیل و شیرینی و میوه مزه های ها رو نداره مام هم واسه مون نمونده تا بشین پای قصه هاشو با گرمای زیر کرسی خواب اون بره و خاطره بشه بله خیلی ممنونم از شما حالا گفتین کرسی من یک مطلبی راجع به کرسی اتفاقا میخوام بگم این کرسی که قدیما پای ثابت شبای یلدا بود بر خودش این میدونی یه ماجراهای های خاصی داشت یعنی اون موقع یه کرسی بزرگ میذاشتن وسط خب همه زیر کرسی میشستن نمیدونم البته شما کسی که می شنوید سده ای منو الان مثلا سنتون به کرسی قد میده یا نه ولی یه کرسی بزرگ میذاشتن وسط همه زیر کرسی میشستن معمولا بزرگتر جم حافظ یا شاهنامه بر بقیه هم ه س نه سالش یه جوری از این کرسیه بهره من می شدد بچه های ریزه تر و کم سنو سال ترم معمولا خیه خب برای کرسی هی میرفتن تو هر دقیق یه طرف دیگه میمادن بیرون. این وسط ها بدبخته های کلی لگ و تو سری میخوردنوزی آتی بگم چون کسی های زغالی اون قدیم قدیم ها خب زغالی بود کرسی مثل اتاق گاز بود دیگه اینجور جور بازی ها مخصوص پرسی برقی بود چون ممکن بوده بخوان با کی زغالی این کارا بکنن بچه جغالش هنوزی. خلاصه بچه ها اینجوری با کرسی حال میکردن اون موقع تو سن مثلا تینیجری و جوونی و دوران جوونی و اینا هم خب اشاراتی که با انگشت شست پا بین دختر خاله پسر خاله دختر امو پسر زیر کرسی رد و بدل میشد دیگه این اوجه روابط عاشقانه اون زمانها بود که حالا البته گایی سحون پایه مثلا دایی و عمو هم خب نخواسته به این روابط باز میشد ولی گاهی هم برحال رسوایی هم بار می اومد دیگه حال اون دوره اینجور رابطه های پایی هم وجود داشت یعنی با همه خاطراتی که داشت لطف خودش هم داشت تو این بالاتر هم که دیگه از گرمای کرسی استفاده می و خب دیگه خوبیش این بود دیگه کسی دیگه دیگه ببخشیدا دیگه برای یه بعه بادو بودی چیزی هم برمیپیچید دو دلش دیگه همش خلاص میکرد و دیگه آبم از قاب تکون نمیخورد دیگه کرسی بود دیگه البته خب بجوزین که یکم ها این مسئله رو بازی بچه ها زیر کرسی خب تاثیر منفی میذاشت که اونم تو خب خیلی مهم نبود خلاصم میگم آقا این کرسی که شما گفتی نعمتی بوده اون زمونا البته هنوزم هستن خونه بودایی که کرسی میذارن، اما دیگه ترکیب جمعیتی و تنوع آدمایی که دورش جمع میشن قدیمانی است خلاصه که کرسیای های قدیم یه چیز دیگه بود بله آقا بیا همه با هم موسیقی شب دایی رادیو پسدایی شبش سیاه دا شب سیاه دا آخت چه ماه الدا؟ چیرو ولو شد چیرو به راه یلا چیرو به راه یلا هندول ها پاره ان آجیلا بیچاره ان بدون دون کردن و مهمونا این کاره مهمونا این کاره یه شام مشت و سنگین آره مرغ و کباب و تحچین امشب رژیم نداریم به جا بشین حافظ و بیار کنار دست بذار یلدا بی پال اصلا به فکرت نیا. پرسی بودش یک زمون جمع می شدیم دوره اون یلدا بود و کنارش لسه و ساز و مزمون لطفا شما خسته نباشید. می‌خواستم در برنامه شب یلدا بیادیم از آقای مهران دوستی بکنم. خوشو همکار قدیمی که تو خیلی دوست داشتم. ممنونم تو که زبا از زبان هستم از الوارس طرح. قربون شما خیلی ممنونم. بله خیلی ممنون که یاد کردین از همکار قدیمی ما و همکار تازه تازه‌گوزشتمون روح شاد مهران دوستی عزیز. ازتون سوال کردیم که حتما با ما در تماس باشید. سوال خاصی نکردیم. گفتیم برامون از آینه‌ها و رسم و رسومات شب یلدا در منطقه محل سکونت خودتون بگین. به ما بگین اهل کجایین و شب چله رو چهجوری برگزار می‌کنین. و دوستانم صدای شما رو از مناطق مختلف ایران توی ویژه برنامه شب یلدایی رادیو فردا بشنویم. یک شب نشینی به وسعت ایران با شما از رادیو فردا تا نیم شب همراهیم. هم خونه هایی من خارجیم بعد خیلی خوب. همیشه تحجب میکنن وقتی من زنی میزنم برای همین دارم یواش باد صوبت میکنم آخه. این جا داره یادی بکنیم از آقای صدا ابی میگه که به مستی شب و تا صبح خرابم چه خرابی این رجنش رو یادتون رفت بگین گفتم یادوبری کنم الای بمیرم خیلی یواشکی و یه گوشه هم رفته بود نمیتونستی درست بخونی بچه چه کشیده با این دوستای خارجیش من مذارت خواهی میکنم از طرف دوستای خارجی اینه زود میخوابن خارجی ها اینجوری دیگه کامران پکنم پشت خطه کامران حسی سلام مجدد سلام علیکم با این صافی که از و انار گفتی من فکر کنم سال دیگه فقط هلال احمر با نسخه بده <تصفيق> تو هم بخور به نظرم کامران و انار میگه خوب الانم افتاده الان سامی از اون موقعی گفتم افتاده روش داره میخوره عمره تموم کرد نصفش رو آره مثلا با پوست به کل خاصیتش ممکن از دست بره آره چه خبر از شب یلدا طرفای شما کامران ولی طرف ما محلی یه هفته از شبه شروع شده میشه چجوری یک هفته؟ آره چون اینجا ما امکانات کمه یه جورایی هوا سالمه این مدارس رو تحتیل نمی کنه. اینا همین کار نمیشه اینه معمولا اولین یک شنبه نزدیک بر جشنی... جشن برگزار میشه امسال بین علماء و فقه آمریکا امریکا لس آنجلس در عمره جشنی و سروری اتفاق نظر نبود از یک شنبه هفته گذشته همینجور داریم جشن میگیریم یادم می افتاد گفتم ما ایشب هم برگزار میکنیم باز مثل ایران مراسم دیگه یعنی همین انار و هندونه و فال حافظ و همین چیزها آره دیگه همونجوره فقط فال حافظ اینجا فرق میکنه یه خورده برخلاف ایران که قذل کار جهان شد به کام ما میاد معمولا اینجا برای همه وقتی نیت میکنن فقط یوسف گمگشته باز اگر به کنعان غمخور میاد الان 30 ساله خب خودت کی برگزار میکنی یا برگزار کردی رفته پی کارش یا از یک شنبه تو هم درگیر برگزاری بودی چجوریه؟ نه خدا بخواد من دیگه فردا شب برگزار میکنم صبحش برنامه زنده نداریم سه شب متوالی تا شنبه هفته دیگه به به به خوش بگذره بهت پیشا پیش مبارک باشی چون فردا شب مخوای برگزار کنیم من پیشا پیش تبریک شب شبه <تصفيق> رو خبر یلداری چی داری برام چرا اتفاقا دارم یه خبر یلدایی دارم اونم اینه که رضا صادقی خواننده محبوب موسیقی پاپ به مناسبت شب یلدا تازه ترین آلبومشو به اسم شب بارونی تو فضای مجازی منتشر کرده یعنی تو فروشگاه ها موجود نیست فرسی جان کی میخواد بعد آلبومو در حقیقت از توی سایت blackshop.ir بره بخره نکته مهمش اینه که تمام عواید فروش این آلبوم یعنی شب بارونی صرف امور خیریه میشه بسیار خب ممنونم ازت اگر که بچه ها پیدا کنن این ترانهی رو که تو گفتی ایشالله که پیدا میکنن ترانهی رزا صادقی رو و نه فعلا خبری نیست نه خبری نیست خب ما دوباره برمیگردیم گردیم به اتکام ران و بچه ها پیدا میکنن این ترانهی رزا صادقی رو از این آلبوم شبه بارونی که گفتی اسمش از مثل یلده های قبل پخش میکنیم توی همین برنامه اگر فرصت کنیم باز به تو بر میگردیم و با آتی گپ و گفت یلدایی دیگه میزنیم. ممنونم ازت. فعلا فیلم خدا. فیلم. ما ایران که بودیم هر شب تو طول هفته ره بره با دوستا بچه ها گروهی همش یا مهمونی بره. یا رستوران گردی بود یا پارتی بود یا نمیدونم این و اون بود کلانش قحال بود دیگه یعنی ما هر شب اینجوری بود تعطیلات آخر هفته هم استفاده می‌کردیم برای تجدید قوا برای هفته بعد این برنامه شبانه ما هر شب برات اشغال همش ایران هم برنامه شبانه تفریات شبانه فقط ایران خارج 2000 به دنده می‌خوره به خدا چه دلپوری داشت چه دلپوری داری تو خوش بگذرون امیدوارم هر جای کسی خوب باشی بله ایران که خب فرق میکنه فضا و حالا هواش فرق میکنه و میدونم که از داخل ایران شنونده زیاد داریم و صدای ما رو میشنوند ساعت 10 و 56 دقیقه به وقت ایرانه به وقت اروپا 8 و 26 دقیقه است از ویژه برنامه شب یلدا از رادیو فردا با شما. سلام آقای منافی میخواستم این شب یلده رو بهتون تبریک بگم و به همکاراتون همینطور میخواستم بگم که یکی از شبای دردناکی و در این حال خیلی لذت دخش برای مادران شبای مادر شدنه 90 درصد این درس زایمان در شب اتفاق میفته و زنان این شب دردناک و به امید مادر شدن و در آقوش کشیدن نوزادشون به صبح میرسونن و تحمل میکنن و در نوکترین شبای انتظاریه که همین فرزندان یادی از مادرشون بکنن و یه زنگی بزنن و یه حالی از اون بپرسن موفق باشی پسرم برنامه خیلی شنیدنی و دوست داشتنی خدا نگهداریت ممنونم از تماس شما بله این شبها به هر حال که همه دور هم جمع میشن خصوصا شب یلدا از اون شباییه که خانواده ها اگر که بتونن کنار هم جمع میشن و حرف شما هم درسته قبلا هم توی برنامه گفتیم امیدواریم که کسی از پدر و مادرش دور نباشه تنهایی بدترین درد آدم هاست این تنهایی امیدواریم که سراغه هیچ کس نیاد به خصوص تو شبایی که اصلا خاصیتشون اینه که آدم باید کنار هم باشن کناره عزیزانشون باشن کنار کسایی که بلندترین شب سال رو بشه باشون قسمت کرد و با هم گذروندشون اما کم نیستن کسایی هم که همین الان توی همین لحظات تنها هستن و تنهایی های ناگذیری که شاید اگه قلبامون تر باشن هیچ وقت دامنگیر کسی نمیشن آرزو میکنیم که همه گره های بست باز بشن و شبای خوشی مثل یلدا برای همه خوش باشن از تنهایی. ما شراغ گر از باز کنی شبیه خوش است به دنیا اشتراز کنی به جان دوست که غم دارد بر شما ندارم ت ما بر اننتاف کار سز کنید میان عاشق و مشروب بر بسیار است چ یا راز نماید شما نیاز کنید میان عاشق و مشروب فرق بسیار است چ یا ناز نماید شما نیاز کنید. همین الان یازده شب به وقت تهران از رادیو فردا با شما این با رضا جمالی درود دو سلام مجدد سلام مجدد امیدوارم خوب باشید من یه دقایق کوتاهی از شما خدافظی میکنم و رضا جمالی رو میسپارم به شما مخاطبین برنامه ویژه شب یلدا تا هم خبر بشنوید هم یه گزارش کوچولوی شب یلدا شب یلدا مر مرسی شب بر شما خوش جنابندگان گرامی یک سایت عربی روز دوشنبه از اسارت دو نظامی ایرانی در اطراف شهر حلب در سوریه به دست گروه شپ نظامیان گردان شام خبر داد و عکس های آنها را منتشر کرد سایت عربی 21 به نقل از گروه گردان شام خبر داد که این دو نظامی ایرانی در منطقه خانتومان در جنوب حلب به اسارت در آمدند خانتومان روز یکشنبه محل درگیری شدید گروه های مخالف بشار اسد با های دولتی سوریه بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی نوشت که این منطقه روز یکشنبه به تصرف های دولتی سوریه در آمده است. منابع مستقل هنوز خبر اسارت دو نظامی ایران را تایید نکردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید مصوبه کنگره ایالات متحده درباره محدودیت مسافرت به آمریکا می تاثیرات جبران ناپذیری بر روند اجرای تعهدات متقابل در اجرای برجام به دنبال داشته باشد با این حال مقام های وزارت خارجه ایران روز دوشنبه ابراز امیدواری کردند که با اجرای توافق اتمی وین در دیما ماه تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود به گزارش خبرگزاری ایرنا علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با ژرار لارشه رئیس مجلس سنای فرانسه گفت برخی اقدامات و تصمیماتی که اخیرن نمونه نمونه‌ای از آن در موسوبه آمریکا به ظهور رسید به طور قطع موجب افزایش سوء تفاهم و بی شده است. معاون امنیتی وزیر کشور ایران روز دوشنبه اعلام کرد که گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسئلات نظام درباره دستگیری سه نفر که قصد بمبگذاری در قوم، مشهد و تهران را داشته‌اند صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس حسین ذوالفقاری در عین حال گفت که در روزهای اربعین تهدیداتی از سوی آن در از مخام تهدیداتی از آن سوی مرزها داشتیم اما از ابتدای امسال به گفته وی فقط تنها دو مورد تهدید وجود داشته است او به جزئیات بیشتر این تهدیدات ای نکرد اکبر هاشمی رفسنجانی روز یک شنبه در همایش وحدت حوزه و دانشگاه از خونسا شدن سه بمبگذاری در شهرهای مشهد قم و تهران خبر داده بود در خبر دیگر رئیس ستاد انتخابات کشور برآورد حزینه های برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در هفتم اسفند را 150 میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران محمد حسین مقیمی با اعلام این خبر در یک برنامه تلویزیونی گفت که حدود یک میلیون نفر در برگزاری انتخابات آینده نقش خواهند داشت. مردم سال جاری نیز جواد ناصریان معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت کشور اعلام کرده بود که از اینه برگزاری انتخابات حدود 160 میلیارد تومان خواهد بود. سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام روز دوشنبه از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کناره‌گیری کرد. سناتور گراهام این تصمیم خود را در پیامی ویدیویی اعلام کرده است. او در این پیام گفته است از آغاز کمپین انتخاباتی خود همواره تأکید کرده که برای شکست دادن داعش به 20 هزار سرباز و نیروی زمینی نیاز دارد و هر کسی که خلاف این نظر را داشته باشد به گفته او برای فرماندهی کل قوا آمریکا آماده نیست خبر کنارگیری این سناتور جمهوری خواه از ایالت کارلونی جنوبی از رقابت انتخاباتی شبکه خبری سی پیش از رسانه دیگر آن را اعلام کرد. و خبر آخر این که کمیته استرار آلودگی هوای تهران در نشست روز دوشنبه خود تصمیم گرفت که مدارس شهرستان های تهران ری اسلام شهر را رو روز سه‌شنبه فردا تعطیل اعلام کند به گفته سخنگوی آموزش و پرورش تهران مهد کودک ها پیش ها و کلیه مدارس مناطق به 19 کانه شهر تهران فردا سه‌شنبه اول دی ماه تعطیل هستند این تصمیم به دنبال آلودگی بیش از حد هوای تهران گرفته شده است سازمان هواشناسی از تا دوم آلودگی هوای تهران تا پایان هفته جاری خبر داد موضوع آلودگی هوای تهران و اقدامات به عمل آمده از طرف سازمان محیط زیست روز گذشته در صحنه علنی مجلس نیز مطرح شد. شنوندگان گرامی این بود چند خبر کوتاه و اما به مناسبت شب یلدا یک گفتگوی ویژه تقدیم شما خواهیم کرد. کوروش نیکنام زاده ی 20 تیر 1333 در درگذشت است. و مؤلف، نویسنده و پژوهشگر فرهنگ ایران باستان هم هست. او پژوهش‌ها و نوشته های بسیاری پیرامونه تاریخ ایران و دین زرتشت دارد و مدرک دکترای خود را در رشته فلسفه زرتشت در سال 1380 خوشیدی از دانشگاه زرتشتیان در هندوستان دریافت کرده است. آقای نیکنام همچنین در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی نماینده زرتشتیان بوده است. همکارم محمد زرقمی با او گفتگوی یلدایی انجام داده که با هم می‌شنویم. خیلی ممنون که تشریف آوردیم به برنامه شب یلده ما اول از هر چیزی دوست دارم ازتون بپرسم که چه تفاوتی هست میونه شب یلدا و شب چله چون اصولا از دوتا اسم استفاده میشه ولی کدومش ارجحیت داره به اون یکی؟ به نام خداوند جان و خرد این دو واژه هر دو در واقع یک معنا میده برای یک جشن که در ایران باستان بوده منتها اسم جدیدش یلداست که یک واژه سریانی است که از تولد و میلاد هم میاد اسم ایرانیش چله است یعنی شل شبانه روز الان مونده به جشن سده یعنی دهم ما که ایرانیان به پاس کشف روشنایی و آتشن رو برگزار میکردند و این اسم ایرانی شب چله است حالا جدیدا میگن شب یلدا میشه بیشتر توضیح بدید اسا از فلسفه شب چله و اینکه این جشن تا امروز که ما الان داریم برگزارش میکنیم چه تحولاتی رو به خودش دیده بله ببینید این برمیگرده به رفتار و کردار نیاکان ما در سرزمین ایران که اونها هیچوقت غم و رنج و سوگ رو نمیخواستند و به دنبال انگیزه هایی بودند که دور هم جمع بشند و شاد باشند و سپاسگزاری بکنند از آفریده های نیکه هورایی. این برمیگرده به آین مهر ایرانی یعنی هنوز ایرانیان توسط پیامبرشون زرتشت دیگان پرستی رو نیا مخته بودند و مردم که عناصر طبیعی رو اون موقع گرامی میداشتند مثل خورشید بعدها نور خورشید یا همون مهر که پیمانداری میکرد و همیشه در زندگیشون میتابید ایزدبان و آناهیت ها را اینها گرامی می داشتند، آب پاک بالنده و خب یکی از خوشبختی های ما اینه که نیاکانمون بود پرست نبودند، از سنگ و چوب و دیگر بود نساخته بودند و این شب چله در واقع زمانی است که در یافته بودند شبهای طولانی هر سال رو که به زمستان میکشید اینها با رنجی و خیلی سختی اون رو به پایان می در درونه احتمالا غارها زندگی می‌کردند غارها در دامنه کوه ساخته شده بود و رو به شرق که هر بامداد اینها نیایش خورشید و نیایش مهر میکردن هنوز ما یادگار نیایش مهر و در واقع خورشید را در خرده اوستا داریم که میخونیم میتره ورگه و یعوی تیم یک آهنگ بسیار قشنگ و دیلی نیست نیاکان ما برحال برای اینکه این, این شب طولانی رو پشت سر بگذارند و از فردا که چند ثانیه با شب قبل شبها کوتاهتر میشه از فردا و روزها بزرگتر میشه این رو میذاشتن اسمش زایش مهر یعنی زایش نور خورشید. منتظر بودن تا سپیده دم بر بیاد و نور خورشید رو ببینند و در واقع زاد روزش رو جشن مگیرن. بعد بعدها میبینیم که این وقتی که وارد این آین مهر ایرانی به صورت میتراینس وارد اروپا شد و بعدها تولد ایسا را در همین چند روزها ما شاهدش هستیم که همون تولد مهر ایرانی هست این به صورت یلدا در اومد و الان به شکل یلدا در واقع برگزار میشه نظرم میرسه وجود رنگ قرمز توی شب یلدا و ده. مثلا میوه انار این چه معنایی رو داره توی فرهنگ ده. ایرانی و توی خود شب یلدا این همون باز نمادی است برای همون نور خورشید اینها چون آین مهر ایرانی رنگ قرمز سرخ رو در واقع خیلی دوست میداشتن شما الان لباس پاپ هم رو ببینید بابا نوئل رو ببینید اینها رنگ قرمز رو دوست دارن در مسیحیت رنگ قرمز آمدن و رفتن نور خورشید رو گزارش میده چون اینا در دامنه کوه ها یا هر سپیددن و غروب آفتاب شما اگر که به افق نگاه بکنید رنگ آسمان به رنگ قرمز متمایل به نارنجی در میاد و میوه هایی هم که انتخاب میکردن و برمی میگزیدند برای گرد همایی هایی که در شب چله داشتند، میوه هایی بود مثل هندوانه، انار، سیب قرمز هر چیزی که رنگش سرخ بود یا آجیل هایی مثل سنجد که پوس دانه ها به رنگ همون آسمان می شود. اشاره کردید به میوه هایی که هستش به هر حال توی جشن بزرگ ملی ایرانی ها نوروز ما سفره ای رو داریم که تدارک میبینیم به هر حال بهش کفتیم میشهالا صفره هفت سین اگر اشتبا نکنم فکرم در گذشته هفتشین بوده دا. بله ببینید این تفسیرها ها متفاوته برای سفره نوروزی که شین بوده و هفت نو چیدنی بوده در واقع یعنی چیدمانی که از درخت انجام می میشده اینها را در سینی های میگذاشتند که نخست این بار از چین میومده و اسمش بوده چینی یعنی و هنوز هم ما به اون جنس سفال کشور چین میگیم چینی این بوده که بعد اون چیدمانها رو درش میذاشتند و قبلا به نام سینی معروف شده شده هفت سین اون جایگاه خود رو در واقع حفظ کرده ولی اصولا خوردن میوه و آجیل در سفره های ایرانی هر دوش یک جای مخصوص خودش را داره چون ما قربانی کردن را در فرهنگ گذشته ایرانی در آین مهر داشتیم فقط بعدها میبینیم که زرتشت وقتی میاد این کار را ناشایست میدونه که انسان برای رسیدن به یک هدفی یانداری رو بیجان بکنه اون رو نکوهیده میدونه و در سروده هایش در گاته ها قربانی کردن نداریم بنابراین بجاش برای که برای مردم جایگزینی داشته باشه اون میگه که شما برای کارد و چاقو و هر ابزار بریدنی رو با میوه‌هایی که در طبیعت وجود داره این کار رو انجام بدید. اونها را به عبارتی ببرید یا قربانی کنید و ازش استفاده بکنید. ما در تمام صفره هامون میوه میوه‌های فصل حضور داره. هم سفره آینی هم سفره جشن ها مثل نوروز یا گهنباره میوه های فرس حضور داره و موبت به گام استروایش اوستا این بخشهایی از این میوه ها را در واقع به قسمت های کوچیک تبدیل میکنه و از باشندگان پذیرایی به عمل میاد یعنی این هدیه ای است که اسمش رو میذارن میزد و میزد پان که بعد شد میزبان در واقع از همین واجه میزد ایرانی گرفته شده آقای دکتر نکنام در آین زرتشتی در ستایش مهر نیایشی هست اونجایی که من اطلاع دارم اگر امکان داره گوشه ای از این نیایش رو برای ما بخونید و چون شاید شرمنده ما ندونن که معنای این کلماتی که شما میخونید چیه این رو ترجمهش رو هم بگید که های ما بیشتر آشنا بشن با مفهوم اون اون چیزی که خب الان به عنوان مهربانیایش در خرد اوستا هست و یک سرودی است از مهریشت یشت یش تا یک سرودهای کهنی است که پیش از زرتشت ایرانیان سروده بودند و این یشت در مورد همین نور خورشید هست و در مورد پیمانداری است طربار یا رامن و خاصطرش ن از برای فروغ و شکوهی که مهر پیوندگار جان و جهان دارد و برای رامش و بهنشینی که به ایران شهر می بخشد می ستایم مهر را مهر پیوندگار جان و جهان را بشود شود که مهر برای یاری ما آید بشود که مهر برای بهکامی ما آید بشود که مهر برای شادمانی ما آید بشود که مهر برای آمرزش ما آید بشود که مهر برای تندرستی ما آید برای نیرومندی ما آید و بشود که مهر برای آسودگی ما آید نیستی اما مثل یلده های قبل میشینم برات انار دون میکنم اونقدر عبری آسمون ما دم بدم هوای مارو میکنم هنوز بنیت داشتن تو شب یلدان فال حافظ میگیرم من یه که یه وقت های فقط زنده میشم که بشه بمیرم امشب میگذره از کنار مثل آب از سر روزگار من ورقه زمون برگشت ولی برنگشتیم دل بی غرار من امشبه از کنار من بس آب از سر روزگار من زمان زمون برگشت ولی برنگشتیم لبنی غرور ترانه‌ای که دارید می‌شنوید همون ترانه‌ایه که کامران ازش صحبت کرد مثل های قبل از آلبوم شب بارونی رضا صادقی هیش که جز خیالتا نمیدونه شب یلدارو چطور سر میکنم تا خود سو روشن از خاطره هم صبح که میشه باور بابر میکنم صبح که میشه به زم سون میرسم زمون که می سو من و به زمستانی که میگیرازم حتی سیاد از تو خون ب امشب میگذر از کنار من مثل ها بد سر روز گار ما ورقه زمون برگشته ولی برنگشتیم دل بیقرار ما برشی جان سلام پاسم شبیه الله رو به خودتو همکارا تبریک بگم و یه شیرم برات بخونم میگه شو اول خواره خیرده هوند بواره نون و پنیر و شیره که خواهوند نمیره پارسیش هم اینجوری میشه امشب اول یلدا یا اول زمستان خیر از خوند بباره نون و پنیر و شیره کد خدا خوند نمیره پپه از خورموه ببال خوده قربون شما خدا خوده به به دمه شما گرد مرسی مرسی شب یلدا شب بزم و سرور است شبی طولانی و غم ها به دور است شبا هنگام با فرشید منافی بسات خنده و شادی چه جور است یونا جابر زاهدی هستم از بندر عباس گونید برم جابر زاهدی وهه بندریو ببین شب یلدایه با شما هستیم تا 12 شب به وقت ایران ساعت 11 و 19 دقیقه و 25 ثانیه است از راژیو فردا و با برابط شای رادیو پس فردا همراه شما این شب خوبی داشته باشیم اما تو این شب یلداب و این روز آخر پاییز جا داره یه یادیم بکنیم از همتن مقیم مغیم نیم کره جنوبی، استرالیایی ها و نیوزلندی ها و این طرف به ها و بقیه دوستانی که الان اصلا حس حال ما رو درک نمیکنن اصلا در عاصل دارن کوتاه شب میش سال خودشون رو تجربه میکنن بر عکس آقا, آقا شما میخواستید مهاجرت کنین چرا رفتیم نیمکره جنوبی؟ آیا این همه جا بود تو نیم کره شمالی؟ والا. حالا ما اینجوری نشستیم پای رادیو داریم برنامه رو گوش میدینم ما هم هم ما مؤذبی ما خودتون اذیت میشین دیگه حالا ما اینجا زیر کرسی نشستیم داریم هندونه و انار خرمالو میخوریم شعر میخونیم میگیم میخندیم اونجا دیگه فوق و فوقش الان فصل و آلبالو گیلاسه خب گناه دارین اینجوری دیگه اشکال نداره ما راحت باشیم قول حتما قول دیگه مرسی به دیگه بفرمایید دیگه اون دوستانی بودن که از ملبورن و سیدنی و اینا زنگ میزدن از آفتاب گرم و ساحل شنی و باد ملاویم و اینا صحبت میکردن اینا نمی‌دونم چرا یه یاد شما افتادم بفرمایید رو خدا بفهم شب یلدا رو هم باشی نمیشه؟ آخه دیگه نمیشه دیگه شما برین آفتابتونو بگیرین آلا آره جلال جان بیا اون ظرف عاجل رو بذار جا دستمان برسه بابا عمرو خوردی که چرا خوبی کم کسی نداری خدا رو شکر. جای دوستان خالیه خلاص اینجا گفتم بگم که بعدا نگا مثلا شب یلدا یادی از ما نکرد این سامی هم که اصلا رحمی به هیچ کدو به هندونه و انار نمیکنه تا ما گفتیم این قوت شب به خیر میاره هیچ چیزی کشته خودشو عمرو خورد دیدی شش هاشی دیدی دیدی چیکار کردی؟ ها. این هوای استرالیا هی گفتی نمیدونم کوفتتون بشه فلان بشه آه. داشتیم حال اون رو از خودمون زندگی رو میکردیم نشسته به میون ماستمون رو میخوردیم تو اومدی جفت پا وسط هوای زندگیمون آه آه آه آه آه. الان بیا چند روز بود که داشتیم گرما میپختیم همین دیروز 42 درجه بود از اون و تنااد اومد نمیدونم طوفان شد پنجش تا خونه نابود. امروز هم دیروز میگم داشتیم میموردیم از گرما امروز داره از آسمان سیل میگم. هوا شده نوده داره. بریم یخ. میکن. بیرون نمیتونیم بریم هیچ کار نمیتونکنیم. چرا این کار دک چرا تو اینقدر جفت با بسط خدا <تصفيق> دلم خونک شد. خب به هرجا که هستید خوب باشید در هر درجه حرارتی که در جای مختلف کره زمین هستین امیدوارم که خوب و خوش باشید و. اگر که پای رادیو هستید باید بهتون بگم اینجا رادیو فرداست را این ویژه برنامه رادیو پس فردا به مناسبت شب یلداست بریم ببینیم این اکبر سرهنگین مقصر اصلی گرونی هندونر پیدا کردن یا نه بالاخره. درماندگان محترم در ادامه گزارش مقصر اصلی یلونی هندونه همکنون در مکانیکی ابرام آقا هستیم و در این لحظه ببینم که جاب دارن شدیدن با ابرام آقا گفته من اومدتون به به رفته شما نمایندگان رو در جریان این گفتگو گذاستم هم قبول ندارم هم. چی چی قبول ندارم اثر بند رو ببینیم آقای چی شده خوشحال نداره یا دعوایی بشه بگذار ببینید بود بچه دیگه بود او سالنگ دیگه نه بابا اون که شلاقی داری چی داریم چی میگی شما چرا تو کار ما دخالت می‌کنی این چی بود نوبر والو آقای عزیز شما نمی‌تونید ساکت بشینید دو دقیقه سرهنگ. متهمات هم مثل خودت هیف واقعا حیفی من که دارم وقتمو با شما تا ساکت باش شما گذارشه تا باشه. خب میگفتی ابرام آقا چرا نرخی تعمیراتو کشیدی بالا؟ چرا نه در جنب سرم البته بند سرهنگم گلابی البته چیچی گفتی شما؟ هیچی با میگم این لبازه میگده که جلیده همه چون گلابی شدن چینی همه میگفتی شما؟ هم دیرو کپشن کپ بوتیک دارم 250. خب تو این سهرما باید یه چیز تن کنیم که سرم نخوریم. آجه. برای این کاپشنو پنجا هزار من پیاد شدم. خب منم مجبورم بکشم رو نخ دستم زارم. اینم جون خوب خریدی ها ولی من هفته پیش 400 دادم برای یه دونه کاپشن خلبانی بازش هلی هلی. از که رو بازیش جا خودکاری داره از اینا. شهادتم از قی نمیخواد حالا شما از فرصت استفاده کنی. آقا جو کاب شه نه تو از کجا خریده شما سمت میدون ولی از ورا دیگه آخه خیلی خوب از آقا بسر آبه پاکوتا سران گیری از... دقیقی بی دقیقی بیشی به تو یه دقیقی بده یه آقا... من من والدم خودم بذنید من, من بگم آقای این چه کاری هست بس از وسطی معمولی از شما انجام میده از میکروفون طلاب مرگ پاکوتا از میکروفون طلاب مرگ پاکوتا ای پاک حقیقتاً بابا حقیقت رقیبی ببین من دی‌پاکوتا میایین ابراه مکانیکو دستپا می‌زنیم می‌شویند هر که موتورت بعد میای دنبال ما دیگه گرمون شکرد مار چرمی قوی ببری کیو گرون فروخته عجب جیری افتادی ما باش سر دیگه ۲ سر چی؟ واچیم چیم؟ یعنی چی نداری؟ ها سرحنگ میگی جان ندادم چی چی میگه بعد من ببینم بده من بده چی چی میگوی قند جان نداره میدونم نمیخواد مقررات من بعدی با مرکز تماس بگی تقاضای ونکون تمام خب آقای ابرام این آدرسی دقیقه این بوتیکی که کابشه خریدی رو بگو ببینه بین ویس بوتیکی نازی بله. تیابونی بری از بعد او بر میدون اوبر سینما تیابونی بری هست حال چه مار میخوای ببری اوبر سینما بریم آقا نفرم ان چه غلطی کردین آقا منو گرفتین پایین با ناجی خانم ای ساری سارنگی مملکت داد نازندگی با این هیچ گلی نداره آقا یک کس وظایفی پلیس تا هم مال صبوری و بورد ماریه شما دخل نکن بیزما یادگاه واسه یه باست... آدمی هستی واسه داشتم از تو دفاع می‌کردم آخ خیلی سرم سرنگ نمیخواد آقا خودم میتونم از اون کارای خودم بر بیام خب میگفتی خواهرم شما کجا بودیم شما گفتی نه گردن نمیگیره آره اونجا بودیم نه گردن من نندازین پریشب رفتم گوش بخرم به قورمه سبزی که اصا به گوشت 35000 تومانو با 40 تومن حساب کرد آخو... خب نمیشه که قورمه سبزی درست نکنیم راست فربزرگم قرار بود خواستگار بیاد مجبور بودیم رفتیم تو خونه فربزرگت نره وقت تو همیشه خودمو میمونی بعد شما ازدواج نکردی نزی خانم چه خوب ببینه ای نزی خانم شو... من الان خودم بسکان آبا ایت. خجالت بکش بینور ببینم اینا چی چه میگی به ناموسی مردم من که هنوز چیزی نگفتم سر نیمیخوادم می بگی تهیه هدف شما از الان مشخصه بله. بله میگفتی خوهرم بفرم خب خوه وقت قصدو اینجوری میکشه رو نرخش ما منطوریم بله. همه چه ببریم بالا میفهمم میفهمم از آقابی سرابه مرگی پاکوتا مرغی پاکوتا پا شما بیاین نوایی اکمر و سواری و با هم بیاین نادرسی ام... قصد بی که بعدم بهت میگم چی داری میگی سره؟ من خودم یکی با خودم میارم. من گفتم موتهم هایی سرهن؟ نه خانم شما شاهدی ما جرایی بنده باید به همکارانم اینجوری بگم که عملیاتو زودتر پیش به منم بله صاحب ببینم میبینم سارای وايشه چه من با ون میام بعد ایشیت مثل گوغوش تو فیلمه ادتادی عزیز... شب باشه سعی کنگر نشسته بود بشینه تاکه تو سارای اولندش من از اینجور فیلم های ما تزنی نمیبینم آقا بعدش هم اینا به شما ربطی نداره من که نمیتونم نا ناموس مردمو بفرستم بیاد لالنگه مش کردن کالاف که بیخیالا من خودمو نمیکرم و شیتون شد یا سارای آقا عزیز این چه طرز صحبت کردنه ایشون همونطور که گفتم ناموسی موسی مرد و من الان تو کمر کشی ما جرا هستی ما موضوع هست ساز شدهست من نمیتونم سر نخستی را ها کنه ای کلک ای کلک کل خب تو بیاین ابرا میکانیکو کن من و خانوم نازی با من میایم خودمون دیگه من خودم هم بشم سرنگ گفتم تو وظایفی پولیست خالت نکن بارا تو ون شما هم خوهرم با من تشریف بیاری بفرمای تشریف بفرمای ما که رفتیم تو ون ولی یادت با نگی طرف ببو گلابی بود نفهمیده بارا آقا جم بارا, بارا. شما از این طرف نازی خانم بفرمای تو از کدوم ای که خواستنت عادت نبودنت فاجعه بودنت امنیته از کدوم سرزمین تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون گاه من خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن منو با خودت بوار من به رفتن قانام هر هرچی که هست تو بخوای من قانام. قابل توجه کلیه مقامات لشکری و کشوری و اعضای محترم مجلس شورای اسلامی رادیو پسفرده به نمایندگی از ملت چلنشین ایران که در این شب سرد پای کرسی خود با کمترین امکانات دلاورانه در برابر خواب مقاومت نموده و سنت های کوهن ایرانی خود را پاس داشتند از آن بزرگواران درخواست می نماید که روز اول دیماه را به حرمت این چشم پرخون و لعبه های پرخنده تعطیل عمومی اعلام نموده و موجبات مسرت و سرور ملی را در سطح کشور فراهم نماگند. چنانچه به هر دلیل اضافه کردن روز پسا یلدا به تعطیلات رسمی در تقنیم کشور میسر نیست آجزان خواهشمندیم که ساعت کار مدارس و ادارات را در همه جای ایران چند ساعتی به جلو منتقل نموده و هموطنان چل نشین خود را از کابوس صبح زود بیدار شدن رهایی بخشید پیشاپیش از بذل توجه و فهم والای شما سپاس گذاریم شب نشینان یلدادوست پس برداریم جون گو که از شهر استان هایی. غزینی رو که جون شدی یال دو. بال. هندونه مکرر هندونه ای که سری و انگلی چقدر؟ شما از غزینی داشتیم. سلام به همه ها خوب باشین خوش باشین چب یلده دوره هم فریبورز هم باز با ماست فریبورز سلام گزارش بده اول گزارش ورزشی نه اول گزارش بسات چب یلده بده ببینیم چه خبره چه کردی <متصفح> اه, فریبورز نا نا هستی خوب چه خبر؟ آه. آه. آه. سلام دوباره مهمون بازی و خوراکی یلدهی بوده تا حالا اما با احتیاط هر جان مراقبت های مخطوصه و پزشکی فینال کار البته هنوز مونده گذاشتن میکنه برایش. آر اماده نگه دار خوته برای فینال دیگه. لذتی میکنیم. خوب بریم سر اصل مطلب و خبر برداشی چی داریم؟ خبری که فاشی دم شب بگرد با خبری که به موضوع هفتم نزدیکن اون مسابقه مرتضای چرمانی مقدم همون مجتبی با چرمانی مقامه بازیکن اسپرت ترسپلیس مرتزا گفته اون موقع ها قبل از بازیای مهم یعنی قبل از بازیای پرسپولیس فرشاد پیوس گلزن اول اون موقعی پرسپولیس به ما هم بازیاش شام میداد که تو مصادره فردا <تصفيق> بهش پاس گل بدی اول با این بعضی که بیشتر فورواردهای الان فوتبال ایران دارن شام که چرز کنم یه هفته بیارتشون اروپا هم بعید میدونم اتفاق خاصی بیفته <تصفيق> واسه یعنی اینطوری آقای گل میشد فرشاد پیوز گفته اینجوری یعنی شام میداد شام میدادیم بهش پاس گل می شا شام میداده آره به اون پاس گل میدادیم و آقای گل شد گل آره فرچی جات تو گل بزن نمی رو بزن شام بده انار بده پاس <تصفيق> گل بگیرو بزن از همون گل زدنه آره. تا فرچی تو گل و آقای گلی اینه هستی ای یه خبرم هست خانم گل فوتبال ایران بده هم به به حتما خانم گلم به بازیش نهار میداده که بهش پاس گل بزنه نه خانم سارا قومی ملی پوش فوتبال زنان و تیم ملوان بندرانزادی با رکورد عالی یک و هشت گل تو هر بازی تو چند سال اخیر گل ترین دختر فوتبال ایران فرشی بهبه یه مصاحبه کرده آره با ایسنا گفته به من میگن سارادونا همون بروزن مارادونا سارادونا و گفته که آره گفته که یه خود کرده از وضعیت سهل قراردادای فوتبال زنان نسبت به مردان گفته ماکسیموم خیلی خیلی بدن به زنان قرار یه قراردادی یه فصل 20 و 5 ملیون تومنه که شفاف خرج ایوب‌زاده‌ها رو هم نمیده مثلا همین سورسات شبه یلدارم که چه عرض کنم گفته پیشنهاد خارجی هم داشتم اما به خاطر مشکلات خانوادگی نتونستم برم خارج کشور بسیار کشمت. خوب ممنونم از لطف برز غریب امیدواریم که شب یلدا تا اینجا که خوب بوده و بساط شبه یلدا مهیا بوده از این به بعد هم امیدواریم که مهیا باشه و خوش بگذره تو باد خدافظی می‌کنیم تا فردا توی برنامه خودمون تو پس فردا دوباره با صحبت خیلی ممنون منم از شما خدا می کنم و تا فردا چه تابستون سون چه بحارش چه توپاییست چه زمه سون وقتی پات رسید تو شیراز قم بده خوشی بوسون همی که چیشت بیافته به <تصفيق> قشنگش با سهات یه ها میران بند ویبو و مردمونش همه خاکی اینجا مثل یه بهشته هنر از اینجا شروع شد حافظ اینجا شعر نوشته هاشون همه پنه پر عشق تا همیشه کل فست فودوی تو دنیا بو کلم پلو نمیشه هر جاره بیری بگردی نمیجوری این شیراز شانزلیزه پویترم نیست توی ای حد ایجوری باز توی جشناش شادی میخونن شعر با سونک جینگو جینگ ساز میاد از بالای شیراز میاد شازد دو مادقم نخور که نمزادت با ناز میاد خب برگشتیم به استودیوی یلدائی رادیو پس فردا البته به همراه نصفی و حاجاقای اندال مومنین اگه بله سلام علیکم حیش شنواندگان عزیز یادشون باشه ما در خدمت حاجاقای اندال مومنین و فرزند نصفشون اندال مومنین فال حافظ گرفتیم و حاجه برامون بخشی از شعر رو تفسیر کردن ان بله و... سال دیگه در شبا یالدمه دیوان بله. خودمون دیگه میاد برون با دیوان خودمون دیگه تفاول میشه به به به چی هست اجقا اسم دیوانتون دیوان خواجه حاجی پروگ خیلی خسته نباشید واقعا بله. چقدم باروزنده هم هست باروزنده‌تونه واقعا این فرشی جون من خودم ناشر دیوان بابا ماما میبرم چین چا پش میکنم انشالله بعد از چا پش دیگه به جوونا خیلی سخت نمیگیرن دیگه آها آه انشالله دیگه خب اگه چیز بدین بریم از دیوان خواجه حاجی پراگی بریم به دیوان خواجه حافظ شیرازی باشه بریم خواجه رستو بدیم به این بیت حافظ که گفته سر تسلیم من و خشت در میکده ها مدعی گر نکند فهم سخنگو سر و خشت فاشیین گو... خیلی سخته یه راه داروش. نمایی بکو لا عقب ددی گناه داره یعنی چی گوسروخش چیه گوسروخش یه اصطلاحه این یه جور مثلا ببخشید ولی خاک بر سر گفتن محترمانه است اینکه مثلا میگه ای... مدعی گر نکند فهم سخن گوسروخش یعنی به مدعی که نمیفهمه بگو مثلا خاک بر سر اولا که از قولا روحانیت به شعر بفرمایید خاک بر سر خدا اینو همین دیگه تفسیر خاصی نداره این دیگه آها آه نداره بسیار خوب بعد مصره اول چطور ها جی سر تسلیم منو خشت در میکده ها این اونجا تفسیرش... من مشخصا شهر داره به خوردن زهرماری اقرار میکنه که مجازات شلاغ داره دیگه ولی دیگر... ببین دادی به نظر من اینجا داره. خیلی تاکید داره روی اینکه که داره. باید به جوان ها خیلی سخت نگیرین دیگه دیگه داری خیلی دیگه دیگر... دیگر... دیگر... دیگر... دیگر... آخ... دیگر... خفا کردی ما را با این حضادی جوان ها دادی ببا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 حال کی گونوا واش دی نی ششبه یلداییه اینج شما کودک بازی میکنید وایس حالا تو هم شلوغش نکن نت... بالا باشه حالا ب... خودت باباتو بهتر میشناسین اسفیجان وایس شب یلداس زشته باشه وایس حالا باشه, باشه. باشه, باشه. حجی بفرمایید شما از این هندونه ها بزنید یه خورده خلقتون واش شما میس که خستم هستین هستیم بده بله بله. اون رو ما این دهان, دهان مبارک ده. ما خوش شد که تفسیر کردیم دیگه حتا. یه نشته ببور بده بخوریم ببینیم آره بفرمایید بفرمید دوانایتان چرا انقدر مثل بزن. خودتان بیرنگرویه دیگه حاجه قابط ببخشی دیگه این فصلش که نیست آخه اینا همه از تابسون تو سعت میذارن برای شب چله دیگه حاجی آقا شما فکر کنم خستم شدید میخواهید بریم بیتا آخر رو بخونیم تا متوجه که قالم نسفی هم دیگه داره بیقراری میکنه اینو کنیم بریم موافقم بله معلومه صدا هر دیگه داری خب okay. با تاخد میکنی با نمیشه که اینجوری ببو. ببو. این هم آدم نشسته وسط باست باست. باست بزنم که پیزه کردی بخو نصفی نسفی چند اون بیا بیا تا به میارم فقط شما قاطع میذارید ذهن نصفی من بیت آخر رو میخونم حاجی جان حافظ میگه بلند. که حافظا بلند. روز عجل گر به کفاری جامی یک سر از کوی خرابات برندت به به سعدی این دیگه ببی. داره میگه بجوان استاد یه بیستری بدین دیگه ها بکوریم. این دیگه میگه که خودم ببن حافظا هم سعدی نظر خیلی کاره نا شایسته کردن. حافظا چیه حاجی. هفز با... است. باشید خودش میگه حافظ نباید. باشه اونا. داره... میندی که اه... میبینی پسر عزیزم. نیخود. ماهی با... با... نداره آماده. ماه داره گلابی. یعنی ماه داره خودش رو خطاب قرار با... میده. این اول شیر. باشید جون دم... یعنی تو میگی حافظ دیوانه بوده با خودش حرف میزد عمیت خجالت نمیکشه. رسمی که توهین به بزنم نه. حکم شرعی بر تو وارد نمایم. حاجی جان نسیم. بابا اخه دارین اشتباه میکنین می می می یعنی آخه حافظا نداریم ما اصلا این داره با خودش ماشینی میگه اونجا کم میگه حافظا مرد نکونام نمیرد هرگز اون؟ این اشتباه کرده این اصلا سعدیاس اون... اون اصلا ولش کن سعدی یعنی بعدم سعدی هم خب داره خودش رو خطاب میکنه دیگه میگه سعدیا اینم میگه حافظی بیا بگم هندونه و اینا رو بردار بیا بریم می فرشید کلاً معتقده سعدی و حافظ و اینا اینا همه دیونه بودن با خودشون حرف زدن خیلی فكره خوبه صدا دل باندم من چون وانا رو میبریم شما این ظرف میوه و انا رو خرمالو و, و اینا رو بردار بریم خب. که بابا وای با میسادی تمومش میکردید اصلا هاجی نسفی منم اینا رو برمی‌دارم برنامه میجیم. رو میگم نه میوه ها اونا رو اونارو که مطمئنم تموم میکنید ما نمیشون میکنیم شما رو... اصلا نگران نباش و هر در جای کبه سعدی و حافظو و هن مشانم میمونم حرفش پروفسورم قرار ما باش نری ز و تو اینا حساب میکنم اون واسه برنامه اونم واسه چی واسه حافظ چی سلام فرشید جان شب یلده همه مبارک کن. اینجا بوشهر مراسم زیبای شب یلده در امارت گلشن بحبه. جای امیگی خالی رزا سهر شیری بهبه جای هم خالی کنین خیلی خوبه خیلی خوبه که مثل که همین الان تماس گرفته بودن آره شهرام از بوشهر همین الان تو همین همین الان همین الان بهبه بهبه مرسی مرسی این شاد بودن شب یلدار رو دیگه همه قبول دارن جز یک بخشی از خواننده های عزیز کشور حالا چه اون ورابی چه این ورابی کنید کلا بعضی از این دوستان کالیبره کردن آهنگ های رو روی غم و غصه با اشک و آه حالا من نمیدونم چه جوری میشه که توی شبیه که همه دوره هم جمع میشن خوشحالند شاد و خندون چرا آقا بعضی ها بعد فاز فاض غم بردارن مثلا چه میم یکی نیست بین ایبی آقای صدای عزیز ما بگه آخه ایبی جان قربونه اون صدای هزار دنگت بشم من شما نگران این هستی که کی عشقاشو پاک میکنه نمیدونم کی نمیدونم تو شبای بی بهونه گیر میشه و اینا بعد یه ها برمیداری نه برمیداری نمیذاری نه نه پای یلدار میکشی وسط که کی منتظر میمونه حتی شبای یلدار کی منتظر میمونه حتی شبای یلدار با خند رولمت بیاد شب برسه به فردا خب اخو شما بزرگ ماین ما ولی آدم میخواد یه مثال بزن خب آیه شب چه میدونم یه شب دیگه یه جای دیگه مثال این همه شب هست میره سراغ اونا دیگه یا خدا برکت بده به این آقای رضا صادقی ایشون خب بخش زیادی از خواننده شدنشون رو میدونین که مدیون رنگ مشکی هستن هستن یعنی هی اومدن گفتن مشکی رنگ عشق بعد دور نظرشون عوض شد حالا هم این مشکیو کش دادن همج آوردن چسبوندنش به این شب یلدای ماگوش کنید اینا عاشق رنگ سیاه شب یلدار آخر روشنی هیچ خیری ندیده آشغه تلخی انتهای عشق حالا که به آخر قصه رسیده بعد آخرش پیام آهنگ میرسه به اونجا که بهترین کار اینه که آدم شب آدم یلده هستن کلن بره خودکشی کنه چرا بابا شما آشقی این مشکی هم که اصلا سرجعازی تونه بابای یلده های ما چی کار دارین آخه شما ها؟ یا اصلا یکی هم میشه مثل آقای حمید حامی گوش کنید کم از آهنگشون آی آقای حامید صادم با هم بودا چهی بازو بسته به آ انی گرم چراغی روشن کلیت شب یلدا رو قبول داره ها میپذیره که مثلا شب یک رنگیه و مهمانی و این حرفا با هم بودمون تا یه جوری می آدم باید گیجش بگیره دقیقا مثل بعضی از خواننده‌های قدیمی هستن که مثلا میونت بی‌وفایی و خیانت کاری و این چیزایی مثلا یارشون میخونن اما کل آهنگ مثلا غیر میدن ایشون البته فازشون فازشون معکوسه این مورد هم داریم قبول داره بعضیا توی یلدا مست میکنن من تو معتقد هر کی توی یلدا مست میکنه باید راست هم بگه گوش کنید آقای مازیار فلاحی مست بگو راست بگو تا شب مست بگو تا نفسی هست بگو هر چی دلت خواست بگو بله کلا تریپ و فازشون قمه دیگه حالا تنگی قافیه باز شده یه حالی هم شب یالدا بدن و با احساسات پاک ما بازی کنن یا نه دیگه نمیدونیم نکنید این کارا رو دیگه چرا انقد غم و غصه؟ من در پایان این بخش میخوام توجه شما رو به این آهنگ زیبا و شاد آقای اسفندیار جلب کنم که به نظر می انقدر خوشن که براشون شبیه یالدا و غیر یالدا نداره به به خریدار حال اونایی هستیم که امشب انقدر خوشن که زبون ازش غاصر آقا همه وسط بسن... خوشم زبون ازش غاصره جونم. ساقی یا کاری کن امشب و یادم نره باده از نو بده هنوز حواسم به جاست اختیار دلم سعی به دست شماست مس مس کن جامو به بر بالا بذان به دست ما میترستم کن تو آدم ماست امشب شب یل دوز مس مس کن جامو به بر بالا بذان به دست ما میترستم کن تو آدم مستی. ش شب دو به به آقای مقصر اصلی هندونه پیدا نشد کشتان ما را این اکبر سرحنگ ای شاهدگان محترم در پی اعتراضات مردمی پیرامون گرونی هندونه در شب جلدا چشف مقصسل اصلی این جروری به اتفاق جاپسرهنگ مشغول دستگیری عوامل این ضایه صف هستیم. تا اینجای کار می به فروش مربوطه علاوه کامیونداری که میوار رو هم میکرده و همینطور یک فقط ابرام مکانیک و نازی خانوم بوتیکتار دستگیر شدن الان تو مغازه قصاب گرون فروش هستیم که به نازی جون گوش رو جرون انداخته. در حال حاضر جاپزهنگ مشغول گفتگوی سمیمامه با آقای قصاب هستند که توجه شما را به این گفتگو نه آقا جون نه ما زیر بارو این اتحام ها نیمیریم منگه شعر آقا. هرته آقا جون صدا تو بیار پایی من میدوزم اون دهنی رو که سری و جیغان و نره بزنه واسه من صدا کلاف بکنم سرهنی سرهن. باید چرا گزارشی ما رو خراب بکنیم من گفتم گفتگوی سمیمانه باید بله. تو صدا تو میندازی رو سره باید جا باید هم خدا وقتی. حرف نباشه آقا حرف نباشد با شما بس. میگم بگو چرا بس. گوش دایه و 5 هزار تو من باردی بالا بگو ها نگفتم قپونی بهبرندتم. رو بی تخصیری. همین همیننیروز رفتم یه سلت ماست بخرم این مثپندی بیا انصاف یه سلت ماست گوسفندی رو 7500 <تصف> <تصف> با سمون حسصاف کرد جای نباشین نمیکشی بالا چی کار می کنی میکشی پایین اینی راست میگم من تایید میکنم واقعا سری چون بی تقصیر این کارکار لبیاتی هستن ه500نج یک داده بی این یارو ماس بنده کنجاست آقا همین سر کوچه بغل نرگ پروشیه گروونی دهنت با مردیم از بزنی توپ فوتبال از این برمون وشید شدیم این بغله بریم بریم بله مارگی پاکوتو بندی همون جایی که هستی واسه ما این دو و پیاده میریم رابیوت آقا رابیوت بریم ولی جناب ما هیچ کاره ایم اینجا ای بابا نع ولد وله به پیر به پیغمبر نه این نه و نکمه الان این ماشتا رو که اینجا قطار كردی توی یغچالد شما چند میفروشی این چرا اتیکتی قیمت نداره این چنده آقاجو چند دفعه و... بگم شما دخالت نکن این وضع ای پلیس است که بر خوار食堂ه شما وایسا آقا بفرمایید حالا این ببین من در تمام مراحل خطیر این ماموریت پا به پای پلیس میدم حالا عد که رسیدین به سرچشمه بعد من اینجوری زاهر کنین ها واقعا اجازه اجازه بعد شما شلوغش سرحن... نکن. خب بگو ببینم چرا آقاجو ما سه تا صاعلی هفت تا 500 میفروشیم شما جان شما میدین ما شیرو کیلو چن میخرین نه نمیدونم چن وقتی دامدار یه شبه کیلو خدا تو من می شروع قیمت شیر خامش باید. ما هم مجبوریم یا آب ببندیم به شیر و ماستمون رو بفروشیم یا گرون کنیم دیگه قرمون شکله شما باید یه چپو نبیگیریم جبه کایتی از اصح... این چوبونی که میگی کجا سالا اول جاده دماون نرسیده به جا هی ای بابا ای بابا ای سرهنگ بال... حالا که ای بچه ها جمعن ماشینم هم داریم ون داریم و اینا میگم از اون برد بندزیم بریم شمال دیگه درست جمعی بریم حالا. آقا جو خجالت بکشم ستی معمولیت شمال چی چی شما میگه؟ جونه تو سرهنگ کباب میزنم برات با لبات بازی کنه ببین. عراغم لدی فا سالی پیش میپیشارشک علاقاش حس نداره سر های میریم از آلشک عراغی آقا زشتت عزیزم من کاری نکهم میالا خودت تا دستگیر کنم جای مغاصری هست خجالت بک مارگی پاکوتا مارگی پاکوتا صدا ما دارین سری ازام شو موقع یاتل منیاتین خاطر تک میلی تحقیقات شما باز هم رای ما بیای آقا جو بفرمایم بریم آقا بفرمایم نا ارمو نه اقدای بالای سر ما بی تخصیری همش تخصیر گوسفنده ی بی پدر مادره که تا هفته پیش روزی سلید چیر میداد ما یه اصلا هفته کرده یه بیشتر چیر نمیده ده خب ما نزدیک شبه یلده بید مجبور شدیم یکم نرخ شیر ببریم بالا که بتونیم هندونه بخریم عجب. نه مقصر ما نیستیم مقصری گوزفنده مجبور گوزفنده میگی این چی نده که با. تازه بابا تموم شیریم که داده باید ازش پخدی کنیم او نکه او یکی رو بیگی. دوبی دو پوشتریید ها زنگ بذار قبل از دستگیری من یه مصاحبه با این جور سومی ای فساد اقتصادی داشته باش شما به خانم گوسفندی در مقابل دوربین ما اعتراف کن من قول میدم چهرتو شطرنجی کنم ببینم شما گوسفندی همه در رابطه با گرونی گفتن نه شما چی داری میگی آیا به مقصر بودن خودت اعتراف میکنی ایول پس قبول داری که بقیه بی‌گناهن دیگه و شما مقصر اصلی دابه سامانی و گرانی در کل کشور هستی؟ ای بایی عجب گزارشی شد سرنگ میگم سرنگ تا دودبین هست و مجرم داره داره تونتون اعتراف میکنه بیا اون دکل گم شده او اون و اون 6000 میلیارد اینا رو متفق کنیم این قبول کنه پروندش بسته شه برید کارش دیگه آقا عزیز این چه حرفی شما میزنی آخه قندی مرده پاپوتا یعنی چرا این جواب میده آقا ببینم ببینم قندی زال های آه ای بابا ای بابا آره ببینم گفتم این داره به همه چی اعتراف میکنه ها نه چهره مال بابا جا نمیل میکنه بوست کاری بابا این تراف خود سر اگ همینجوری اعتراف کنه ولی با و خارو ما بادو تو ممشا چیر و راژ گفت با دو با دو بایحل هل گوی محمری نمیتونیم ما این آمده بریم ما این دمتی میکنیم میام همه دریا موج دریا دریا موج دریا دریا موج دریا دریا ستونوف پامبا ساتوجن اما این شبایی مثل امشب خلاصه کاسبیا به راهه و هر کسی تو هر شغلی یه جورایی نفی میبریم این وسط حالا چه مغازه‌دارا و فروشنده ها چه راننده ها و تاکسی دارا چه اونایی که کار هنری و خدماتی انجام میدن مثلا مثل ها خلاصه همه توی همچی شبی ممکنه مهمونی با داشته باشن و بر حال به بخواید مدل آلا گارسونی کوپی میزانپیلی چیزی بزنن موارو و میشه ادامه این قسمت من توضیح بدم؟ سلام شرمی خانوم چی شده این ورا چرا بعد تو بگی این بگین قسمتوشه همینجا خب آراشگاه دیگه مربوط به خانما میشه یعنی شما میفهمید آقایون میرن قنادی ماچونه اصلاح میکنن هی بابا فرش جان دیگه چهار تا شیدون که این حرفا رو نداره ببینا خیلی ممنونم از لطف شما خواهش میکنم بفرمایید طرفتون رو سر و پا گوشین بله من میخواستم بگم که آرایشگاه تو ایام مثلا ایام یلدا خیلی شلوغن اگه شما بد از یک ماه قبل وقت بگیرین تا شب یلدا بتونین برین آرایش کرده شیک بیاین خونه شرمی جان حالا آرایشو خاصه تابع گلدام دارین مگه آها معلومه که داریم فرشی جان. یه حرفا می‌زنین سال عسله آرایشای مخصوص شب یلدام من جورای مختلفه دیدم ام. مثلا یه بار دیدم یکی از دوستام لب بالاشو رژ قرمز زده بود لب پایینشو رژ سبز چون هندونه واجوقون بیشتر خنده‌دار نیست و قشنگ هالووین نیست که یلداس باشه یکی از دوستامم رفته بود موهاشو سبز و قرمز کرده بود یا خدا کسی سکته نکردیشون دید با بابا همه ازش می‌پرسن رنگ موش چی بوده همه خسته نباشن واقعا خب حالا فرشی جان می‌خوای اگه حرفی داری برای هیچ دیگه حتما با این ای که تو میگی آرایشگاه مردونهام باید واسه نه نیست که یا سیبیل تخم هندونه‌ای مثلا. نمیدونم چی میشه. خودم هم نمیدونم چی میشه. ولش کن آقا بگذریم از آرایشگاه‌ها نخواستیم. کل ممنونم و شهر می و صحبت‌های کارشناسیشون درباره مورد مدل‌های موی یلدائی. اما چیزی به نیمه شب نمونده و برنامه ویژه شب یلده ما هم داره کم کم به پایان میرسه اما شب هنوز ادامه داره هیچ دقت کردید یلده و نوروز و اینجور مناسبت های شاد ملی رو یه نخ تسبیح به هم وصل میکنه نخ تسبیحی به نام ایران ایران یعنی یک تکه خاک عزیز که برای همه ما اول و آخر جهانه جاییه که دنیا برامون از اونجا شروع میشه و به همونجا هم خط میشه. و نادر ابراهیمی چه زیبا ایران رو خطاب میکنه وقتی که میگه ای وطن ای ریشه من اشق من اندیشه من گور من گهواره من قلب پار پاره من بگو از اونا که رفتن تو رو بی شکستن بگو از اونا که موندن دل تو اینجا شکستند با همه عذاب دیروز دل به فردای تو بستند. توی این روزای خوب هم میبینی که با تو هستن اما من نه اهل سودام نه به فکر ترک اینجام اهل تو از ریشه تو خاک تو خون تو رگهام ای وطن ای ریشه من عشق من اندیشه من گور من گهواره من قلب پار پاره من دلم از تنهایی تو حتی یک نفس جدا نیست گله سر کن که میدونم گلهات یکی دوتا نیست شب یلداتون خوش و وطن عزیز همه ما ایران تا دنیا دنیاست سربلند و سرفراز نام جاویده وطن صبح امید وطن جل در آسمان همچو مهر جاودان وطنی هستی من شور و سرمستی من جل در آسمان همچو مهر جاودان به شنو سوز سخنم. که همه آوازه تو منم، همه ی تنم، بتنم، بتنم، سخنم که نباید گرینش همه ی تنم، بتنم، بتنم، بتنم، بتنم همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان هم با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خشونت بزنان زه ایران جوان به سالت ایران بهن ز سلابت ایران جوان به شنو سوز سخنم که نواگرین چمن همه ای جان تنم بتنم بتنم بتنم بتنم